فصل ششم شاه آینه خداوند تصاحب یک امپراتوری تحمیل قانون اقتدار خیش بر ملل بیشمار تسلط بر بابل و استقرار پسر و ولیعهد خود به پادشاهی یک مملکت چند هزار ساله اما در عین حال تظیرش این حق برای هر کس که هویت خیش را حفظ کند. حالت روحی کورش پس از فتح بابل هیچ شباهتی به احساس ده سال پیش او هنگام ورود به اکباتان و ایجاد وحدت قطعی میان جماعت آریایی تبار که تا آن زمان قدرت‌های حاکم آنها را تحقیر و استثمار کرده بودند نداشت. اکباتان دچار نمادینی بود که در به روی خود بسته بود و به نظر کورش وامی بود که باید ادا میشد. پایتختی که از زمان ایجاد سلسله مادها باید در مالکیت کسی در می آمد که به تواند این قوم از شمال آمده را گرد نام خود وحدت بخشد. کوروش پارسی با رخنه در سارد، شکست کرزوس و اشغال کشورهایی که بر شبه جزیره آسیای صغیر حاکم بودند و با دستور به سرداران خود که اقتدار مهاجرنشینهای یونانی را از بین ببرند، در واقع قلمرو خود را گسترش داده بود. اما ورود او به شهر بابل که برای تمام انسانهای طالب پیشرفت جاذبه داشت، شاه حخامنشی را در وضع کاملا متفاوتی قرار داد. دیگر به هیچ وجه این مسئله مطرح نبود که خزاین بابل مانند اکباتان یا سارد خالی شود. به هیچ وجه قرار نبود تمدنی از بین برود تا تمدنی دیگر تحمیل شود. و بنا نبود سنتی ملی نابود شود و سنتی جدید جای آن را بگیرد. کوروش در مقابل بابل مانند شاگرد فرمان برداری بود که می‌کوشد هرچه آموزگار به او می‌گوید، بیاموزد. در برابر بابل نیروی نظامی به حساب نمی آمد، گویی با آمدن کوروش سلاحا ها کند شده بودند. کوروش که تازه بابل را فت کرده بود، سر به فرمان آن نهاده بود. مفهوم نوینی از سلطنت شکوه و عظمتی که هنگام ورود کوروش بر شهر حکم فرما بود، به خوبی نشان می که او را به مسابه شهریاری فرمانفرما فرما پذیرفته و مورد استقبال قرار داده بودند یک قرن بعد گزنوفون تشریفات شکوه مند ورود او را چنین توصیف می کند. در برابر قصر گارد نیزداران جاوید چهار هزار نفر در چهار ردیف از دروازه قصر به خارج صف کشیده بودند و همه سوار نظام نیز افراد از عصبها پیاده شده در کنار آنها ایستاده و دستهای خود را زیر بالا پوش کرده بودند به طوری که هنوز در حین عبور پادشاه مرسوم است. پارسیان در سمت راست و متحدان در طرف چپ و عراب رانها نیز به همین سان از دو سمت. خود کوروش در گردونه اختصاصی پدیدار شد، با کلاه شاهی بر سر و قبایی به رنگ ارقوانی که نوار سفید بر آن دوخته شده بود و فقط مختص شاه بود و نیم سرخ پررنگ و ردای ارقوانی دور کلاه خیش سربند بسته بود. همین که شاه ظاهر شد همه جمع به خاک افتادند. شاید بعضیها دستور این کار را داشتند و آن رسم پابرجا شد و یا آن که مردم از شکوه دستگاه شاهی و دیدن سیمای زیبا و برازنده او چنان کرده بودند. در هر حال تا آن روز هیچ پارسی در جلوی کروش به خاک نیفتاده بود. پس از آن که گردونه شاه به حرکت درآمد چهار هزار سوار نیزدار از پیش و دو هزار در هر دو سمت گردونه راه افتادند، در عقب آنها اصاداران سلطنتی با زوبین در دست سواره حرکت کردند. سپس دویس رأس اسب از استبل شاهی با دهنه زرین و یراقهای راه راه و از دنبال نیز دو هزار نیزدار و بعد دسته قدیمی ترین سوار نظام پارس شامل ده هزار نفر در ستونی صد نفری پهلو به پهلو حرکت می کردند. بعد دسته دیگر سوار نظام، به فرماندهی هیستاس و باز دسته سوم به ریاست داتاماس و دسته دیگر با فرماندهی گاتاداس و سپس سواران مادی، کادوسی ها، و سکاها به ترتیب و بعد از دسته های سوار نیز، گردونه در ردیف چهارگانه از دو طرف راه. به راستی این بابل بود که کورش را تحت تأثیر خود قرار داد. البته شهر کلدانی همه قدرت سیاسی خود را از دست داده بود ولی قدرت معنوی خود را حفظ کرده بود. کوروش نتوانست از این قدرت بگریزد. او با شور و اشتیاق به خدمت خدایان بابلی درآمد آمد تا عظمت دستگاه خدایان را که خود بابلیان با آن بد رفتار کرده بودند به آن بازگرداند. کوروش یک بار خود را نماینده رسمی مردوک و خدمتگذار آن معرفی کرد. اکنون بابلیان نه تنها او را یکی از خودشان بلکه احیا کننده مذهب خود می شناختند. شهریار ایران با پیروی از این منطق از آرامشی که در مجموعه امپراتوری حاکم شده بود سود برد تا معبد ایشتار در اروک را دوباره بسازد و دستاورد خود را با این کتیبه مسجل کرد که کوروش شاه کشورها که ازاگیل و ازیلا را دوست دارد، پسر کمبوجیه شاه نیرومند، من و یادآور شد لطفی که نسبت به ایشدار کرده نباید سرسپردگی او را نسبت به مردوک بابل که در معبد ازاگیل مستقر است یا نسبت به نبو که در بورسیپاست مخفی بدارد دارد بدین گونه به مفهوم باستانی شاهی منتخب همتایان خود بعدی متفاوت میبخشید. مفهوم شاه حامی خدایان با این کار مشروعیت او نه تنها مورد تردید قرار نگرفت بلکه برعکس به نحوی برخلاف انتظار تقویت شد اکنون از زمانی که شاه آنشان مردم را مسلح کرد و در پاسارگاد گرد آورد تا اراده خود را برای شورش علیه آستیاک پدر بزرگش اعلام دارد مدت‌ها می‌گذشت عرباب آینده شرق در آن زمان خاستار آن بود که در میان قبیله خود اعتباری به آورد که به او امکان دهد فرمان روای سرنوشت برادران خود باشد. اما با گذشت سالها این نوع سلطنت که جوهر مردمی داشت تغییر کرد و جای خود را به یک نظام حقیقی شهریاری داد. تنوع خواستگاهی و فرهنگی اتباع امپراتوری جدید، گوناگونی نهادهای وابسته به قدرت‌های متعددی که کوروش بر آنها غلبه کرده بود و بالاخره پیچیدگی سنت‌های ملی که او در مسیر خود با آنها برخورد می‌کرد، شاه بزرگ را به سوی پرورش و استوار کردن اندیشه‌های جدیدی درباره سلطنت خود سوق داد. بدین ترتیب شور و شکوه چهره سلطنت، هنگام ورود شهریار حخامنشی به شهر یا هنگام جشن سال نو که از سوی کمبوجی شاه بابل برگزار شد با زمانی که کوروش فقط شاه آنشان بود، تفاوتی اساسی داشت و متصور نبود. برخورد ایرانیان با تمدن بابل میوه خود را به بار آورد. کوروش و پسرش از حالت ابتدایی قبیله آریایی خارج شدند. البته خصوصیت مقدس سلطنت در نزد ایرانیان اندیشه ای عمیقا استوار بود ایزد ناهید که همراه با اهورا مزدا و مهر مجموعا دستگاه ایزدان آریایی را تشکیل میدادند در قدرت سلطنت صحیم بودند به علاوه همانطور که برای شاهان آشوری بابلی سلطنت حاصل نفوظ ستارگان بود، برای پارسیان نیز خدای زمان که بر حرکت ستارگان فرمان میراند ساعت ظهور شاه جدید را انتخاب میکرد. اما در بابل هیچ چیز از این اندیشه مهمتر نبود که شاهان از مشیتی برتر اطاعت میکنند و خود نمایندگان خاست الهی بر روی زمینند. آیا شهر بزرگ همان محل برتر جهان نبود که خدایان از آنجا وارد زمین شده بودند؟ بابل حتی منبع قدرت شهریاری به شمار می رفت. بخصوص با انتصاب کمبوجیه به جانشینی خود به سنتهای جدید سلطنتی گرویده و رسم قبایل پارسی را کنار گذاشته بود. از زمان حقامنش همیشه شاه جدید پس از مرگ شاه سابق و در داخل قبیله سلطنتی و با موافقت تمام افراد قبیله انتخاب میشد. به علاوه، نشانه ایزدی باید این انتخاب را تایید می کرد. این انتخاب دوگانه انتخاب مردم و خدای خالق آسمان و زمین مشروعیت انکار ناپذیری به سلطنت ایران میبخشید. با این حال، وقتی شاخه ای از خاندان سلطنتی قطع می یا در صورت وجود اعتراض نشانه ایزدی اهمیت می بدون حق اعتراض مدعیان مختلف را کنار میگذاشت. مثلا سالها بعد، وقتی کمبوجی پسر کوروش پس از پنج سال سلطنت طی حادثه زندگی خود را از دست داد، بیان که جانشینی برای خود در نظر گرفته باشد، پارسیان باز به نشانه ایزدی متوسل شدند. قرار شد در جریان یک مراسم در سپیددم یعنی هنگام برآمدن خورشید نماد روشنایی و باروری و با وجود یک اسب ابزار پیروزی جنگی تکلیف شاه آینده روشن شود قرار شد قبل از سپیددم نامزدهای احراز مقام سلطنت با اسب خود به محل مرتفعی بروند در آنجا رو به سوی مشرق منبع راستی به ایستند در حالی که میراخور در کنار ایشان قرار دارد با پیدایی سپیددم انتظار آغاز شد با پدیدار شدن نخستین پرتو خورشید هرکس کس که اسبش زودتر شیه میکشید شاه میشد و بقیه باید از او اطاعت میکردند بدین ترتیب داریوش جانشین کوروش و کمبوجیه شد و به سلطنت رسید مهتران اسب‌ها یا میراخوران گاه با هیله و هوش خود نقش خاص معتدل ای برای اراده ایزدی ایفا می کردند. میراخور داریوش ابارس در لحظه سرنوشت ساز زیر بینی اسب داریوش پارچه‌ای آغشته به بوی مادیان محبوب او را گرفت، بنابر این اسب بیدرنگ شیهه کشید. بنا به هرودوت در تمام مشرق زمین میگویند که داریوش پادشاهی خود را مرهون اسب و میراخور خیش بوده است. بنا به گزارش این مورخ یونانی وقتی که نفوذ و قدرت داریوش در سراسر قلمرو او استوار گشت، اول کارش این بود که فرمود ستونی سنگی بر که بر آن چهره مردی سوار بر اسب با این عبارت در پایین آن منقور شده بود. داریوش فرزند ویش تاسب از برکت وجود اسب خود و مهتر هوشمندش عبارس به پادشاهی رسید. در زمان حیات کوروش چندان اعتراضی در مورد جانشینی وجود نداشت. شاه بزرگ جانشین خیش را برگزید و بیدرنگ او را در قدرت سهیم کرد. او در واقع مطابق سنت سلطنتی کشوری رفتار کرد که آن را فعت کرده بود. اکنون پادشاه ایران دیگر نخستین در میان برابران نبود بلکه مانند تمام شاهان آشور و بابل شهریاری بود که با قدرت ایزدی به سلطنت رسیده بود. با این حال، پادشاه حخامنشی هرگز سنت دادگری، انصاف، آزادی و احترام به دیگران را ترک نکرد، فقط دیدگاه خود را در مورد تمام جهان نشان داد که وفاداری دوگانه او را به همه انسان از یک سو و اراده ایزدی از سوی دیگر به اثبات می رسانید. از آن زمان، گزینش شاه دیگر به یک قبیله و یک کلان بستگی نداشت. شاید او با این زربلمسل بین و آشنا بود که سایه خدا انسان است و سایه انسان انسانهای دیگر انسان شاه است که مانند آینه خداوند است در سنت ایرانیان باستان خورشید رمز و نشانه سلطنت است اما آفتاب همزادی مانند خیش دارد که بر زمین فرود میآید تا پادشاهی را به کسی بسپارد که برای رهبری انسانها برگزیده شده است بدین سان رسالت شاه جنبه معنوی شدیدی دارد او باید برای تحقق هدف آفریدگار با او همکاری کند و در زمین و زندگی بنا به اراده او رفتار نماید پس مفهوم آریای پادشاهی به نظر کوروش با مفهوم سلطنت که جهان آشوری بابلی بر شاه بزرگ تحمیل می کرد سازگار بود در واقع سلطنت در ذهن حخامنشیان اولیه هیچ ارتباطی با دین خاصی نداشت و از یک اصل معنوی بینام سرچشمه می گرفت که شرط جهان شمولی کار پادشاهی بود. آیا کوروش با ورود به بابل تبدیل به شاه جهان نشده بود؟ کوروش تفاوتهای مذهبی را کنار می گذارد اما طبقه روحانی را نفی نمی کند. برعکس، اهورا مزدا خدای بزرگ یکتا آفریننده نیک خداوند اندیشمند اعلام میکند کند که دو راه برای انسان وجود دارد یا به شغل روحانی بپردازد یا به حرفه رزمندگی وحدت این دو عمل کرد در یک انسان یگانه امکان میدهد که بر روح بدی یا شر به طور قطعی غلبه شود اما درست از آن جهت که اعتقادات انسانها متفاوت و متعدد است وحدت بخشیدن به آنها دشوار است عمل کرد شاه توجه به گوهر معنوی است وظیفه او برقراری نظم در جهان و ادامه کردار اهورامزدا است تحت اقتدار شاه رمه ها و انسانها از صد مرگ آزاد می شوند و آب ها و گیاهان از خشکسالی رهایی می آبند. در سلطنت او نه سرماست و نه گرما، نه پیریست و نه مرگ و نه رشک مخلوق دیوان به ترتیب شخص شاه تجلی بشریت، نماد حالتی برتر، کیهانی و حافظه زنده است که به تجدید حیات واقعی جهانی می انجامد بنابراین، کوروش از یک انگیزه معنوی حقیقی پیروی می که به طرز شگفت او را به سوی حفظ مذاهب در چهارچوبها و حدود اجتماعی و سیاسی آنها رانده است. اما به نظر او کلید جهان در آینهای مذهبی نیست بلکه از مفهوم سلطنت مایه می‌گیرد که از این پس محرک اوست. سازمان امپراتوری تشکیل یک امپراتوری اعطای ساختار یک قلم واحد با یک سرنوشت مشترک به مجموعه کشورها و آدمهای زنده زیر تسلط ایران اجازه دادن به هر ملت و قوم که شخصیت و هویت خود را حفظ کند القای خاست و میل به اطاعت از شاه بزرگ به همگان اجبار به پرداخت خراج تشکیل سپاه از سربازان مناطق امپراتوری دفاع از ساختمان دولتی حقامنشی در مقابل هر گونه حمله خارجی یا شورش داخلی و سرانجام سپردن قدرت محلی به افراد مطمئن و بهرهبرداری برداری از اعتماد ملل آنها اینها وظایف جدید کسی بود که شاه شاهان شده بود ساده سادهترین وظیفه عبارت بود از رعایت تقسیمات جغرافیایی واحدهای متفاوتی که امپراتوری جدید را تشکیل می‌دادند. هیرکانی و پارت واقع در جنوب دریای خزر که برای حفظ ایران بزرگ در مقابل حمله‌های شمال در نظر گرفته شده بودند، یک ایالت را تشکیل می‌دادند. کوروش حکومت این ایالت را به هیستاسب، عموی خود پسر آرشام سپرد. منطقه استراتژیکی دیگر متشکل از سوریه، فنیقیه و بابل نخست به گوبریاس و سپس به کمبوجیه سپرده شد. غیر از این دو مجموعه که برای امنیت قلم او اهمیتی اساسی داشتند، کوروش بقیه شاهانی را که اقتدار او را پذیرفته بودند، در های خود حفظ کرد. این کشورها و ایالات، عنوان حامی قلم رو را داشتند و تقریبا دارای صلاحیت کاملی در مورد مسائل اقتصادی، اجتماعی و اداری بودند. هر یک از حاکمان این مناطق حتی اگر شاه نبودند، شاه تلقی می شدند و درباری داشتند. یک منشی یا دبیر، یک خزاندار و یک سردار فرمانده نیروهای نظامی به آنها کمک می کرد. مقام ساتراب ها ارسی نبود، به طوری که وارثان مشروع آنها باید شایستگی اعتماد شاه را داشته باشند. به علاوه شهریار حخامنشی بازرسانی تعیین کرده بود که سالانه به هر یک از ساتراپی ها می رفتند و مراقب سیاست آنها بودند و به آنها چشم شاه می گفتند. بنابراین دوری از مرکز امپراتوری ایران چندان باعث نارضایتی کسانی که به میل یا به اجبار اقتدار کوروش را پذیرفته بودند نمی شد. شاه چهار گوشه عالم از حامیان قلم رو توقع داشت صلح و آرامش را حفظ کنند سرباز بفرستند و به طور منظم به پاسارگات خراج بپردازند او یک نظام ارتباطی در سراسر امپراتوری برقرار کرده بود به نحوی که اخبار به سریع ترین وجه ممکن در هر فاصله‌ای که قرار داشتند به اطلاع او می رسید به نوشته گزنوفون این پیک ها به هیچ وقت شب توقف نمی کردند همیشه جای یک پیک روزانه را یک پیک شبانه می گرفت ادعا می شد که با این شیوه سفر اخبار سریتر از قرقی می رسد اما یک مشکل بزرگ وجود داشت و آن وجود زبانهای متعدد بود شاهان آشور و بابل به علت تعدد زبانها و لحجه های مورد استفاده در قلم روی خود، فرمانهای خود را به ایالات دور دست توسط میانجیان بیشماری ابلاغ می کردند. بنابراین شاهان بین النهرین همیشه با انبوهی کاتب و مترجم احاطه شده بودند. هخامنشیان و در رأس آنها کروش راه حل سازگاری یافتند که برای حل این مسئله سادگی عجیبی داشت. در همه جا از یک میانجی زبانی واحد استفاده میشد. بدین منظور، کافی بود در دستگاه اداری، ارگان فرستنده و ارگان گیرنده به یک زبان حرف بزنند و به یک خط بنویسند. پس کافی بود که در سطوح محلی و سطوح مرکزی کاتبانی باشند که دارای یک زبان و یک خط باشند. با توجه به اینکه کاتبان سطوح مرکزی زبان مسئولان و رهبران محلی را می‌دانستند و کاتبان سطوح محلی نیز از زبان‌های مملکتی آگاه بودند نقش این زبان میانجی به زبان آرامی سپرده شد و کاتبان آرامی یا آرامی زبان بودند در همه جای امپراتوری گروه های کاتبان آرامی مکاتبات و مراسلات سلطنتی را دریافت و بلافاصله به زبانهای محلی ترجمه می بنابر بنابراین در زمان حخامنشیان زبان آرامی انتشاری جهانی پیدا کرد که برای اداره مجموعه ایالات بسیار مفید بود. به برکت این شبکه ارتباطی که کوروش به سرعت ایجاد کرد، اقوامی که زیر تسلط ایران میزیستند به یکدیگر وابسته شدند. جدایی طلبی به معنای سقوط در هرج و مرج و از دست دادن هرگونه حمایت در مقابل حمله های خارجی بود و نیز با توجه به اهمیت مبادلات بازرگانی به خفقان اقتصادی میانجامید. کوروش همه اتباع خود را با یکدیگر همبسته کرده بود که بدین ترتیب از ساختار یک دولت فدرال حقیقی، یک بازار مشترک و یک سیاست دفاعی مشترک بهره می بردند. کوروش با چشم پوشی از فکر اداره مستقیم امپراتوری خود شاید برای نخستین بار در تاریخ شرایط توسعه سلحامیز را فراهم کرد. یک ارتش پنجاه هزار نفری واحد نظامی اصلی امپراتوری جدید را تشکیل می‌داد. این ارتش یک ارتش ملی نبود، بلکه مجموعه‌ای از واحدها با ملیت‌ها و تبارهای مختلف بود که فرماندهی آنها را رهبران اقوام گوناگون بر عهده داشتند. دو نوع فرمانده بر ارتش مسلط بودند. یکی کوهنشینان آریایی تبار با چهره سفید و یکی داشنشینان به ویژه ایلامیان با چهره‌های آفتاب سوخته کوروش وقتی پاسارگاد را ترک کرد تا فتح مشرق زمین را آغاز کند فقط چند هزار سرباز در اختیار داشت این افراد به تدریج به برکت سازماندهی و تسلیحات خود و به یمن کمک‌هایی که پیوسته از فارس برای آنها میرسید ارتشی حقیقی را تشکیل دادند پارسیان از کمان فوقلادهی استفاده می کردند که بسیار بزرگ بود. می توانستند از فاصله دور با تیراندازی عمودی بارانی از تیر بر سر حریف ببارند. گارد سلطنتی نیزه های طویلی در اختیار داشت که در نبرد از نزدیک باعث برتری آن می شد. سپرهای چرمی یا هسیری تسلیحات فردی را تکمیل می کردند. سوار نظام که شامل شوتوران نیز میشد و عرابه ها به ویژه عرابه های داستار برای حمله به کار می رفتند و حمایت از پیاده نظام را بر عهده داشتند این فرزندان آریایی که به محرومیت و زندگی سخت کوهستانی عادت داشتند در مقابل ملل غرب از صفات رزم استثنایی برخوردار بودند و معمولا همیشه پیروز می شدند اما در عوض لشکرکشی‌هایی که علیه قبایل شرقی که در همان مکتب پارسیان پرورش یافته بودند انجام دادند برای ایشان دشوار، نامطمئن و گاهی همراه با شکست بود. گرچه ارتش خصلت یک نیروی ملی را نداشت، اما در خدمت مردم بود. کورش را پدر مردم مینا او از همان آغاز توانسته بود افرادش را متقاعد کند که آنها برای خود و خانواده هایشان نه برای شاه یا حفظ نظام موجود. کم نبودند مواردی که افراد طبقه پایین به مقامات برجستهی می رسیدند. مثلا، فردی به نام فرولاس که قبلا کشاورز بود، به دلیل شجاعت در جنگ ها متعدد دریافت کرد. او هنگام ورود رسمی کوروش به بابل در تشریفات استقبال حضور یافت و سپس عنوان اسادار شاه را به دست آورد. فرولاس که از هیچ شروع کرده بود به عضویت نخبگان پارس درآمد. شاه بزرگ به خصوص در خطابهایی که پیش از شروع نبردها ایراد راد می کرد از یادآوری پشتیبانی خدایان و توجه به سخنان حاطفان خودداری نمی ورزید. کوروش وقتی پیروز میشد برخلاف آشوریان یا بابلیان که به افتخار خدایان محلی دسته راه میانداختند بخت مساعد جنگجویان را ناشی از دخالت خدایان معرفی نمیکرد او شایستگی پیروزی را از ارتش خود سلب نمیکرد و به دین ترتیب در میان سربازان خود احساسی از قدردانی و سرسپردگی به وجود می آورد که شاید کلید حرکت پیروزمندانه‌ای ایران بود به علاوه او به هیچ فرش مللی را که فرمان روایشان را مغلوب کرده بود تحقیر نمی کرد به ترتیب پیشرفت و تعالی وسیع حخامنشیان را بر ملتهای متحد تحکیم می بخشید گروش حاله افتخاری را که به نظر دیگران او را فراتر از انسانهای دیگر قرار می داد انکار نمی کرد. با این حال میخواست دیگران او را در درجه اول نماد و مظهر دولتی با 5 میلیون کیلومتر مربع وسعت و ده میلیون جمعیت بشناسند، نه جنگ جوی فاتح و شاهی صاحب قدرت. و از این رو، کوروش یک پارسی و یک شاه آنشان باقی ماند. برای اعلام حقوق در کشور شاه حقامنشی در تفاوت با همورابی نامدار شاه بابل که دوازده قرن پیش از او سلطنت کرده بود قانونی رسمی برای ادالت به وجود نیاورد. او در این زمین نیز ترجیح داد خود را وارث سنت هزارهی سومر معرفی کند زمنان که دستاوردهای سامی را نیز فراموش نمی کرد. همورابی نخستین کسی بود که قواعد رفتار اجتماعی بابلیان را تنظیم کرد و مجازات های مشترک برای تخطی از قانون مقرر داشت. قانون او یک منشور قانون مدنی در کنار قانون کیفری نبود، بلکه بررسی مورد به مورد مشکلاتی بود که ممکن بود میان بابلیان بروز کند و فهرستی از مجازات ها برای زیانهای وارده به کل جامعه. همورابی که نام او به معنای خدای هما درمان کند بود، در مقدمه قانون مشهور خود فراتر از همه قانون شمش خدای خورشید و ادالت را قرار داده بود برای اعلام حقوق در کشور برای از بین بردن بدیها و تبهکاریها، برای آنکه قوی به ضعیف زور نگوید برای ظهور بر مردم مانند خورشید و روشن کردن کشور بر روی یک ستون سنگی دو 225 متری 282 و و بند قانون نوشته شده و زیر آن تصویر همورابی نقش شده است که با دستهای افراشته در مقابل خدای شمش قرار دارد که روی تخت الهی نشسته است. در واقع قوانین همورابی سرآغاز توسعه قدرت مردوک خدای بابل بود که به تدریج سطوح سلسله مراتب الهی را پیمود تا تبدیل به بزرگترین خدای دوره کوروش شد. قانونگزاری شاه باستانی بابل نشاندهندهی بخشیدن بعد انسانی به ادالت بدون دخالت ایزدان بود. مجازات زمینی رفته رفته جای داوری و مجازات الهی را می گرفت. مثلا اصل اردالی این بود که هر مرد متهم به جادوگری یا زن زناکار در رودخانه فرات انداخته شود. اگر فرد متهم موفق می به ساحل برسد، بیگناه اعلام اعلام میشد و متهم کننده او محکوم میشد با این همه پس از متروک ماندن اصل اوردالی کاهنان کماکان مقام قضاوت را بر عهده داشتند و حتی وقتی دادگاه های عرفی مسئول در برابر شاه تشکیل شدند باز هم معابد محاکم صالحه بودند کوروش نه تنها ترجیح میداد از ادالت دین زدایی کند بلکه برعکس از تغییر دادن قانون همورابی نیز خودداری کرد. با این حال قانون گذاری در مورد یک نکته متحول شد. قانون قصاص که برای سامی نجادان بسیار گرامی بود نوع خاصی از تلافی یا جبران به شمار میرفت. رفت. هر کس چشم کسی را کور کرده یا دندان کسی را شکسته یا به عضو مرد آزادی آسیب رسانده بود باید اینن همان قصاص را پس میداد. اگر مردی دختر جوانی را می قاتل را نمی بلکه دختر قاتل را می کشتند. در عوض، اگر قربانی یک برده یا برده ی آزاد شده بود، مجازات مجرم سبکتر بود و با پرداخت پول یا انجام خدمتی جبران می شد. بنابراین، مجازات بر حسب شدت جرم و نیز خصوصیات قربانی فرق می کرد. برای جرایم بسیاری مجازات مرگ تعیین میشد تجاوز بچه دزدی سرقت دزدی همراه با شکستن در زنای با محارم قتل شوهر از طرف زن با این هدف که با مرد دیگری ازدواج کند ورود یک کاهن به یک میکده پناه دادن به برده فراری بزدلی در برابر دشمن در جنگ انواع اختلاس بد داشتن خانه و حیف و میل اسباب و اساسیه آن یا تقلب در تجارت آبجو قانون همورابی میزان دستمزدها قیمتها و حتی انعامها را تعیین کرد. به این ترتیب نقش مهمی در امر مجازات به دولت داده شده بود اگر مردی در حین سرقت دستگیر میشد مجازات او مرگ بود اما اگر دزد می توانست فرار کند، شخص مال باخته در حضور خدا فهرستی از اموال دزدی تهیه می کرد و شهر یا داروغه باید خسارت او را جبران می کرد. اگر کسی جانش را از دست میداد شهر یا داروغه باید مبلغی به وارسان او می پرداختند. قانون همورابی روحی کاملا قضایی داشت و نه اخلاقی. حتی بندهای متعددی سرشار از روح مدارا و گذشت بودند که مقایر تمدنی می نمودند که کورش با آن تماس گرفته بود. به ویژه قوانین مربوط به خانواده، نمایانگر تلاشی قابل ستایش برای محافظت و پشتیبانی از زن و کودک در مقابل ترک زندگی، بد بدرفتاری و فقر انجام میداد. و گرچه مجازات ها در اینجا نیز بسیار جدی هستند ولی با مدارا و گذشت و پذیرش موارد و کیفیات مخففه تعدیل می‌شدند. مجازات زناکاری و خیانت زن مرگ بود ولی شوهر می‌توانست همسر خود و شاه معشوق او را ببخشد و بدین ترتیب از انداختن آنها در رودخانه چشم پوشی شود. اگر مردی کانون خانواده را ترک می کرد و همسرش به دلیل نداشتن معاش به خانه مرد دیگری میرفت گناهکار محسوب نمی شد. اگر زنی بدرفتار بود، شوهرش می توانست او را از خانه بیرون کند بدون آنکه چیزی به او بدهد. ولی اگر زنش را به علت بچه دار نشدن تلاق می داد، باید مبلغی مطابق شعن او به او پرداخت کند و ای را که از خانه پدرش آورده بود به او بازگرداند شوهری که همسرش بیماری وخیمی داشت میتوانست همسر دیگری اختیار کند اما باید زن بیمار را تا زمانی که زنده باشد نزد خود نگه دارد با مرگ پدر اموال او میان فرزندان تقسیم میشد ولی همسر او میتوانست حق انتفاع را حفظ کند و خانه ها مزارع و باغهای میوه و اساسیه را در اختیار خود نگه دارد اگر زنی میمرد جهیزیه او به پدرش بازپس داده نمیشد، بلکه به فرزندانش می رسید، فرزندان را نمیشد بدون دلیل معتبر از ارث محروم کرد. اراده صلح طلب شاه باستانی بابل از فراز قرون اعلام کننده اراده آشبانانی پال بود که دستور داده بود متن کامل قانون او را برای کتابخانهاش بازنویسی کنند. همونرابی توانسته بود در پایان قانون ادالت خود، با غرور نتیجه گیری کند که من از شمال و جنوب دشمنان را نابود کردم من آتش نبردها را خاموش ساختم من به کشور نیکبختی دادم من یک نشینان را در چراگاه های سبز آرامش بخشیدم اجازه ندادم هیچ کس به آنها آزار برساند من شبان رهایی بخشی هستم که عصای او راست است سایه رفاه بخش من بر سر شهر گسترده است، من مردم سومر و اکد را بر سینه خود فشردم، آنها به برکت حامی من ایشدار در رفاه هستند. من پیوسته در صلح و آرامش بر آنها حکومت کردم، آنها را به برکت خرد خود پناه دادم. کورش در کشوری که فت کرده بود، با نوعی ایدئولوژی ثابت و با هدف تأمین امنیت و صلح روبرو شد، کوروش به رغم های انحطاتی که بین النهرین شناخته بود، عظمت یک تمدن را درک می کرد. منطق کشورگشایی. ماندن در جوار قوم خود، پارس. حفظ خلوص سنت معنوی اجداد خویش، حفظ صلح. کوروش پس از اقامت در اکباتان که از آنجا فرمان مشهور خود درباره آزادی یهودیان را اعلام کرد، به پاسارگاد بازگشت. او با این عمل میخواست نشان دهد که فقط شاه آنشان است. پس از بازگشت به اردوی پارس ها کار تکمیل ساختمان پایتخت تخت خیش را از سر گرفت. برای اینکه که نشانه قدرت جدید خود را در محلی که از آنجا شروع به پیشرفت کرده بود باقی گذارد دستور داد روی یکی از دیوارهای کاخ این کلمات را که به طور نمادین به زبان کلدانی خاص سامیان نوشته شده بود حق کنند من کورش هستم شاه جهان شاه بزرگ شاه نیرومند شاه بابل شاه کشور سومر و عکد شاه چهار گوشه جهان او بدین ترتیب نشان میداد که ضمن وابسته کردن هویت خود به سنت شاهان هخامنشی و آریایی به امپراتوری جهان دست یافته است همچنین پس از پیروزی بر بابل با کنده‌کاری‌هایی بر سنگ تصویر شاه را نقش کردند یک سنگ بزرگ سفید در میدان قرار داده شد چهره زیبا شخصیت یک تیپ آریایی با گیسوان جمع شده بافته که به زحمت تا بالای گردن میرسد ریش کوتاه و مجعد بالاپوشی بلند به تن دارد که از داخل پوستین و از پهلوها دکمه دوزی شده است بر سر او تاجی مشابه تاجهای بعضی از الهه های مصری قرار دارد روی شانهایش بالهایی مانند فرشتگان آشوری و کرروبیان کتاب مقدس باز شدهاند. برای نخستین بار اطرافیان کوروش بدین ترتیب پی می بردند که شاه حخامنشی صفاتی دارد که از خدایان ملل تابعه عقص کرده است ولی در عین حال تفاوتی میان خدایان پارس و خدایان ملل مغلوب قائل نیست فردای جنگ بابل شاه چهار گوشه آلم 49 ساله می شود. وقتی شاه آنشان بود سی سال هنگام پادشاهی ماد و پارس 38 سال و زمان پادشاهی لیدی 41 سال داشت و مدت 20 سال این پسر شاه دست نشانده مادها که مادری شاه دخت و مادی داشت جویای استقلال کشور خود شده و آن را یافته بود. او مغرورترین پادشاهان شرق را زیر سلطه خود درآورده بود، اما انقیاد بابل برای او معنای دیگری داشت. کورش برای نخستین بار تمدنی را میستود نه آنکه فرهنگها و اعتقادات اقوام دیگری را که فتح کرده و با آنها دوست شده بود، تحقیر کند. بلکه به این دلیل که بابل به او امکان داده بود خواستگاه حقیقی قدرت خود را دریابد. وقتی کوروش پس از شکست آستیاگ با دختر او آمیتیس یعنی خاله خودش ازدواج کرد، در واقع حرکتی قدرتمندانه انجام داد که معنای سیاسی خاصی نداشت. در عوض از سر عشق و میل با یک شاه دخت هخامنشی به نام کاساندان دختر فارناسب ازدواج کرد که سه دختر و دو پسر برای او به دنیا آورد. کمبوجیه که جانشین او شد و که حکومت ساتراپی های شرقی امپراتوری را به او سپرد. راساندان هنگام تسخیر بابل درگذشته بود و هرودوت میگوید که شاه بزرگ بسیار از این بدبختی اندوهگین شد و سوگواری بزرگی برپا داشت در همین زمان کوروش ناچار بود به دو پسرش حالی کند هخامنشیان فقط سلسله فاتح و فرماندهان جنگی نیستند بلکه پیرو سنت نوینی هستند که آنها را فراتر از شاهان دیگر قرار میدهند آیا الهامی که زندگی کوروش را متحول ساخته بود زیاده از حد جدید و شکننده بود که برای پارس‌های های سرازیر شده از کوه فارس قابل توضیح باشد؟ کوروش پس از بازگشت به پاسارگاد احساس رضایت می‌کرد. در سراسر امپراتوری افراد و مأموران شاه مراقب صلح و آرامش بودند و آشوبی در منطقه وجود نداشت. این وضع به نحو عجیبی با وضع زمان سلطنت آشوریان فرق داشت. اقوام و ملل شرق چنان خود را در اختیار پارس ها گذاشتند که در گذشته هرگز گونه به شاهان بین النهرین تن نداده بودند. در واقع نسبت به اولین شاهان حقامنشی احساس دوستی و احترام می کردند. اقتصاد بهبود یافت تا آنجا که خود پارسیان از پرداخت مالیات معاف شدند و این به هزینه های آبیاری ساختمان راه های ارتباطی و معابد متعدد بود. گنجینه های انباشته مادها، لیدیها و بابلیان برای تأمین هزینه مالی این ترها کفایت می آیا کروش به همین قناعت می کرد که بدون اقدام به طرحهای جدید به سلطنت بپردازد؟ آیا اندیشه‌ای که پارس ها را به ترک کشور آنشان و کشورگشایی واداشته بود، همان اندیشه‌ای نبود که محرک آشوریان، بابلیان و لیدیایی ها در کشورگشایی ها و قدرت طلبی آنها بود؟ اگر شاه بزرگ ناگهان مانند کشورگشایی معمولی جلوه می‌کرد و اتباع خود را به سوی افقهای نوین رهنمون نمی‌شد، چه اتفاقی می‌افتاد؟ اینک کورش باید تلاش کشورگشایی خود را متوجه چه مرزهایی می کرد. قدرت یونان رو به استواری میرفت. این قدرت کاملا در نزدیکی لیدی قطب جاذبه فرهنگی و سیاسی بود که کرزوس شاه ثروتمند را مجذوب و شیفته خود کرده بود خدایان آتن و اسپارت نقش مهمی در فعالیت مذهبی بخشی از امپراتوری جدید ایفا میکردند. آیا لازم نبود به این منبع قدرت حمله شود چون با وجود اینکه سردار هارپاک مهاجر نشینهای ساحلی را شکست داده بود ممکن بود برای امپراتوری حقامنشی خطر محسوب شوند. میدانیم که کوروش علاقه چندانی به یونانیان نداشت و آنها را مردمی تاجر مسلک تلقی می کرد. به علاوه چند خدایی بودن آتنیان و شکوه جشنهای مذهبی ایشان تا حدی باعث حیرت شاه ایران می که خدای متعال را قدرتی غیر مادی میدانست. بالاخره شاه هخامنشی این مردم را که قاره را تسخیر کرده بودند که رفته رفته اروپا نامیده میشد شایسته این کشورگشایی نمی دانست و آنها را نسبت به کسانی که توانسته بودند از کوه های ایران و بیابانهای آسیا برای خود امپراتوری بسازند پست تر می شه مرد جنگ با یونان برای فتح اروپا قرار گرفتن در مسیری بی بازگشت بود و به ویژه این خطر را داشت که محاسن ملت او را از وی تاند بدین ترتیب با آنکه امپراتوری با فتح فنیقیه و لیدی تبدیل به قدرتی دریایی شده بود کوروش در آن زمان به هیچ وجه قص نداشت به قاره چشم بدوزد که مقدمات تمدن یونان در آن جوانه میزد. اما مصر وضع دیگری داشت و دارای پیوند تنگاتنگی با تاریخ منطقه بود این کشور حتی مواقعی که احتیاط فراوان استراتژیکی را رعایت کرد، هرگز از دخالت در پیکارهایی که اقوام سامی و آریایی را در مقابل هم قرار میداد تردید نکرده بود. در ظاهر مصریان همواره در مقابل اوجگیری قدرت پارس ها از نشان دادن نیت خودداری کرده بودند. فرعون آماسیس از هر فرصتی برای جلب نظر کوروش استفاده کرده و چندین شاه دخت مصری را به دربار شاه بزرگ فرستاده بود. تعدادی دانشمند به خصوص اخترشناس و پزشک نیز همین راه را در پیش گرفته بودند. مثلا احمس بهترین متخصص پیشگویی را به نزد کوروش فرستاد که با بالا رفتن سن بینایی او شروع به کاهش کرده بود. علوم و قلم روی جدید معرفت ایرانیان را شاد و شیفته خود میکرد. جانشینان کروش بعدها دیگر اجازه نمی دادند. دانشمندان بیگانه با پایان یافتن مأموریتشان به کشور خود بازگردند. به طوری که اهل علم، مصری و غیر مصری پیش از پذیرش عظیمت به بابل، اکباتان، شوش یا پاسارگاد کمی دوچار تردید می شدند. کوروش به رغم رفتار خوب مصریان با خود میدانست که ناچار از کشور فرائنه را تسخیر کند تا به امپراتوری جهانی خود تحقق بخشد و شایسته لقب شاه همگان و شاهنشاه شود بنابراین پسرش کمبوجیه را مأمور تدارک حمله به مصر کرد کمبوجیه برخلاف برادرش بردیا مردی تندخو و تا حدی حال بود اما به نظر می رسید شایستگی مأموریتی را که پدرش به او محول کرده است دارد. به علاوه بنابرای روایت مورخان یونانی و آسیایی شاهزاده جوان برای انتقام گرفتن از مصر دلایل کافی داشت. می وقتی کمبوجیه ده ساله بود روزی به حرمسرا رفت و شاهد گفتگوی مادرش با یکی از شاه پارسی شد. هرودوت می نویسد میگویند یکی از بانوان پارسی به اندرون شاهی رفته بود و از دیدن زیبایی و هوش فرزندان کاساندان به او تبریک گفت کاساندان پاسخ داد با وجود فرزندان برومندی که دارم باز کورش نسبت به من بی‌عتناست و تمام توجهش معطوف به زنی است که از مصر آوردهاند. در این هنگام کمبوجی اظهار داشت مادرجان وقتی به سن و سال مردی برسم، به خاطر مادرم مصر را تارمار خواهم کرد. باد، آب، آتش، آسمان با این حال کروش هیچ نیازی به شتاب نمیدید. فرعون مانند یونانیان هیچ خطری برای امپراتوری جدید او محسوب نمیشد. در داخل مصر نیز هیچ آشوب یا مایهی برای شورش وجود نداشت در واقع کوروش فقط از حمله احتمالی از سوی شمال بیم داشت از سوی مهاجمان آریایی که در مکتب بیابانها پرورش یافته و در جستجوی زمینها و چراگاه بهتر بودند کوروش کمابیش خود را در همان وضعیتی میدید که فردای تسخیر لیدی با آن مواجه شده بود می دانیم که شهریار حخامنشی پیش از حمله به بابل به شرق رفته بود تا چفت و بست های مرزهای شرقی امپراتوری خود را محکم کند. او طی پنج سال پس از جنگیدن در سواحل دور دست سیهون واقع در شمال خارزم و سخت زندگی مردم آن نواحی را سامان داد و آنها از آن زمان پشتیبان او شده بودند. امروز نیز قبل از اینکه جنگی علیه مصر راه بیاندازد که ممکن بود سخت و طولانی باشد آیا بهتر نبود دوباره به شمال و شرق امپراتوری لشکرکشی کند تا حضور خود را در آن مناطق نشان دهد؟ کوروش نیازی به اندیشه طولانی نداشت شاه ماساگت ها که مملکت او میان دریای خزر، دریاچه آرال و میان رودهای سیهون و جیهون قرار داشت تازه مرده بود مردمی که این شاه برانها حکومت می کرد از لحاظ خشونت و تندخویی و خلقیات ناهنجار معروف بودند. هرودوت می نویسد می گویند که این مردم مانند حیوانات در ملای عام جفتگیری گیری می کنند و با این حال سپس می آنها ملتی بزرگ و شجاع هستند. بنا به رسم مردم چادرنشین نشین قفقاز همسر شاه ملک تومیریس جانشین او شد. کوروش که تصور میکرد موقعیت مساعد است، به ملکه جدید مساگت ها پیشنهاد اتحاد داد و حتی از او خواستگاری کرد. تومیریس که شامهش خطری را بوییده و از آن بیم داشت که مبادا کشورش سرانجام در دست شاهی که تمام منطقه را تسخیر کرده بود تحلیل رود، پیشنهاد کوروش را رد کرد. بنابراین کوروش تصمیم گرفت به سوی کشور مساگت ها حرکت کند، از پارت و هیرکانی که امویش هیستاس بران فرمان میراند و سازماندهی ارتش او را تسهیل کرد، عبور نمود. کوروش قبلا درست پس از ترک ایکباتان، وقتی هنوز در شهر بارن بود، کرزوس پیر شاه سابق لیدی را همراه خود برداشت تا شاید از توصیه مفید او استفاده کند. لشکرکشی علیه مساگت ها با بهترین تدارکات انجام گرفت. شاه هخامنشی به سوی سرزمینی نمیرفت که با آن بیگانه باشد بلکه به سوی کشوری میرفت که نیاکان دوردستش پیش از استقرار در فلات ایران از آنجا عبور کرده بودند آریاییها که از تاریکی و سرمای سرزمین اجدادی خود فراری بودند زمانی در این منطقه توقف کرده بودند چنان که گویی میخواستند لغتی بیاندیشند، کدام جهت را برای کوچ انتخاب کنند در زمان تولد کوروش در منطقه خارزم و مناطق مجاور آن شاهی فرمان میراند که در تاریخ آن منطقه نامدار شده بود. او ویشتاسب هم نام پدر داریوش بود که شاه بزرگ را در حمله به ملکه ماساگت ها همراهی میکرد. ویشتاسب موفق شده بود مردمان بسیار مستقل و سرکش آن منطقه را تحت حکومت فدرالی متحد کند، به برکت وجود او اعتقادات ابتدایی آریایی ها تبدیل به عنصر انسجام میان تمام کسانی شده بود که در شرق فلات ایران میزیستند و این همان منطقه ای بود که کوروش 17 سال پس از فتح لیدی برای دومین بار از آن عبور می کرد شاه خارزم پس از تأسیس یک امپراتوری کوچک و برقراری صلح نسبی در منطقه موفق شده بود دربار خود را به یک کانون معنوی مبدل کند بدین ترتیب او در پایتخت خود از زرتوشت استقبال کرد. زرتوشت که از آزار بعضی این مقان در ماد گریخته بود اهورامزدا را خدای معنوی می دانست که بر تمام گیتی جهان مادی و مینو جهان معنوی فرمان می راند. او آموزش های خود را نزد ویشتاس توسعه داد و او را مرید خیش ساخت. پس از مرگ شاه خارزم، تعلیمات زرتوش در جهت معکوس حرکت او یعنی از شرق به غرب پیوسته در امپراتوری ایران اشاعه یافت و در حدود سال هزار در سراسر ایران گسترده شد. شاه بزرگ احتمالاً به طور مستقیم با کیش جدید زرتشت آشنایی نداشت و اگر هم سخنان پیامبر مورد حمایت ویشتاس به او رسیده بود، بدون تردید در بینش مذهبی او نسبت به جهان موثر افتاده بود. نه درباره اعتقاد کوروش به پیامبر بودن زرتشت و مذهب مزده یسنا مدرک کتبی و نوشتهای در اختیار داریم و نه حتی کتیبهی که وابستگی معنوی کوروش را به اهورا نشان دهد. بنابراین پرسش بزرگ کوروش درباره آینده خیش و آینده جهانی که ساخته بود گوهر ما بعد و طبیعی این جهان بود. در هیچ لحظه ای، عملیات نظامی، دقدقه های سیاسی و اداری بر دستاوردهای انسانی که او میخواست به نام قدرتی متعال انجام دهد، اولویت نیافت. حتی اگر در بعضی اظهارات اشاره مبنی بر وفاداری به این یا آن خدا یافت، کروش هرگز از مذهب اولیه آریایی از ایمان خود به خدای بزرگ منحرف نشده و از این لحاظ با زرتشت هم عقیده بوده است. بسیار قبل از اینکه که تیره های آسیایی بر آسیا چیره شوند، مذهبی در میان آنها زاده شد که مربوط به رابطه نزدیک این مردان و زنان با محیط سخت و دشمن اطرافشان بود، آفتاب سوزان، ابرهایی که اغلب آسمان را میپوشاندند و بادهای شدیدی که زمین را در مینوردیدند نوردیدند، بودند که در ذهن آنان جهانبینی خاصی مبنی بر این امید پدید می آوردند که رفتاری داشته باشند تا آنها را با این نیروهای طبیعی آشتی دهد. وایو، خدای باد و سپهر می توانست برای نیکی به وزد یا برای بدی، در نظر آریاییان باد شروع هر چیز و ستونی بود که آسمان و زمین را به هم می پیبست. درخت کیهانی قطع شده. وایو، روح نفخه کیهان بود. زیرا از نظر زرتشتیان، جهان که آفریده خداوند بود، مانند جنینی در بدن خدای متعال قرار داشت. مهر یا میترا، خدای بزرگ، خدای آسمان هم شبانه و هم روزانه حاکم بر تاریکی و روشنایی بود. ستارگان چشمان همه جا حاضر و همه چیز بین او بودند و خورشید مرعی ترین شکل آن بود. اما مهر نیرومندترین ترین خدا نبود. خدای برتری نسبت به او وجود داشت اهورا مزدا که ظاهرش گمبد فلکی و آسمانی بود. او در دربرگیرنده همه عناصر گیتی بود و همه جا را میدید و نامش به معنای خداوند جان و خرد بود. او خدای آسمان بود کسی که نگاهش تا دور دست ها میرفت. ستارگان جاسوسان او بودند و خورشید چشم او. ایزد ناهید زیبا و بینقص به این دسته از خدایان سامان بخش تعلق نداشت. این ایزد وابسته به رود بزرگی است، شاید جیهون یا بعدها رود کورش یا کور که در نزدیکی پاسارگاد جریان داشت، و با این حال چیزی فراتر از آن بود که الهه آب پاک باشد. البته او به شکل دختر زیبا، نیرومند و تابانی نشان داده می شود که کمری بلند و نیمتنی بسته دارد تا سینه هایش بهتر نشان داده شود. او گوشواره از طلا و گردنبندی در گردن زیبایش دارد. روی سر نیم تاجی از صد سنگ گذاشته است. روپوش او از زر ناب و جامه‌هایش از پوست براق بر بیدستر است. اما ناهید قبل از هر چیز الهه جهانی است چون ایزد باروری است و با آینده انسان ها و طبیعت پیوند دارد. در مذهب طبیعی آریایی ها آتش نقشی بنیادی داشت. او با دم فضایندهش کسانی را که از سرما و تاریکی رنج می بردند، حفظ می کرد. مراسم گرامی داشته آتش در آتشگاهی در محل مرتفع و آسمان باز انجام می شد. به پیروی از این سنت نیاکانی خود دستور داده بود یک برج آتش روی صفهی بسیار بزرگ بسازند که بر دشت پاسارگاد مسلط بود. اما این محل های مقدس معابدی نبودند که مجسمه های از الهه ها داشته باشند و انبوه مؤمنان را گرد آورند. آتشگاه فقط نشانه خطاب به خدایان و چراغ راهنمای کردار انسان ها بود. باد، آب، آتش و بالاتر از همه آسمان تکیگاه های اساسی مذهب جماعاتی بودند که کروش از میان آنها برخواسته بود. مردمی که عناصر طبیعی را می پرستیدند اطاعت خود را از نیروهای الهی با قربانی کردن حیوانات و بویژه اسب نشان میدادند. هنگام فتح بابل یک مراسم قربانی رسمی در برابر کوروش انجام گرفت. وقتی دروازه قصر باز شد در سر دسته چهار گاو خاص قربانی پیش می رفتند. آنها چه هیکل شکلی داشتند و قرار بود به درگاه پروردگار بزرگ، اهورا مزدا یا خدایان دیگر که مقها نام می داده اند، قربانی شوند. بعد از گاوهای نر، از پای نظر خورشید قربانی می شدند و سپس گردونه سفیدی که مالبند زرین داشت و حلقه های گلبران آویزان بود و خاص اهورامزدا و بعد از آن گردونه سفید دیگر که به مهر اختصاص داشت و مانند عرابه قبلی با گل‌آراسته بودند و باز گردونه سوم که از پای آن یراق‌های ارغوانی داشتند از دنبال نفراتی مجمرهای بزرگی را پر از آتش بر دست می‌بردند مفهومی که زرتشت از دین طبیعی ارائه می‌داد آنقدر انقلابی بود که مورد آزار قرار گیرد و مجبور به فرار شود تردیدی نیست که او با طبقه روحانی موجود مقان نیرومند مادها و قدرت مسلط مخالفت می کرد و اندیشه های نوینی را پیش می نهاد که نظم موجود را تهدید می کرد و سرانجام نیز به یک سخنرانی برندازی پرداخت زرتوشت قبل از هر چیز یک موبد بود موبدی که با های موجود و ورد و سهر به مخالفت برخواسته بود او میخواست ثابت کند که اعمال بعضی خدایان دروغین با خرد عمیق مذهبی ناسازگار است. او ناچار بود نفرت مقان را تحمل کند. گرداننده شطران زرتشت سومین پسر شاهدختی به نام دوغدوا بود که بنابرای روایت سنت هنگامی که به دنیا آمد میدرخشید. پدر پیامبر پور و شسب به معنای دارنده اسبها ها با جامعه خالدار به یک قبیله قدیمی آریایی به نام اسپیتاما تعلق داشت. نیای بزرگ این خاندان نامدار و یک جانشین مردی به نام هکاتاس بود که معنای آن شستشودهنده گیسوان خیش است. معنای نام زرتوشت گرداننده شتوران است، کافی است اضافه کنیم که پسرش ایسات واستر کسی که چراگاه ها را دوست می دارد نام داشت تا محیطی را که در آن خاندان اسپیتاما زندگی میکرد بشناسیم. زرتوش هنگام کودکی از محیط اطراف خود در شگفت بود. مشهور بود که او با لبخند به دنیا آمده است و گویا تمام روز تولد خود میخندیده است و همیشه در سال روز تولد خود میخندید. او دچار جذبه شده بود و از خود می‌پرسید چرا من در این کالبود گوشتی قرار گرفتم و این کالبود بهتر از کالبود دیگری است می‌گویند مغز او امواج نیرومندی می‌فرستاد چنان که دستی را که بر پیشانیش قرار می‌گرفت می‌راند همچنین زرتشت از کودکی در مقابل رنج جانوران حساس بود او بدین ترتیب دشمن کرپانها شد قبیله ای شمالی که فراوان به قربانی حیوانات می‌پرداختند از گوش تقضیه می‌کردند و برخی از روحانیان آنها حتی تا جایی پیش می‌رفتند که قصابی را باعث طول عمر می‌شمردند. زرتشت برای پرهیز از دشمنی کرپانها به کوههای جنگلی پناه برد و در آنجا از خدای خود پرسید ای اهورا قوانین جهان اولیه را به من آموزش ده. او که با خلقیات ضعیف برادرانش به شدت مخالف بود، میخواست طبیعت و رابطه اساسی میان انسان و محیطش را بشناسد. در واقع ایمان و عقیده او شکل گرفته بود. از دوران نوجوانی از خوردن گوشت پرهیز میکرد. روایت شده است که از بدو تولد و هنگام رشد از آب و گیاهان بسیار لذت می‌برد. از آغاز تولد او و هنگام رشد او آب و گیاهان افزایش یافتند زرتشت با حرارت بسیار قربانی کردن حیوانات را تقبیه میکرد و آن را هم خشونت خونین و هم منبع فقر میدانست برخلاف او روحانیان کیش مهرپرستی آموزش میدادند که بهترین شیوه سازگاری و آشتی با حسن نیت خداوند و مبارزه علیه خشکسالی افزایش نظر قربانی حیوانات است. زرتشت علیه آنها چنین نکوهش میکرد. قربانی کنندگانی که از قواعد دامپروری پیروی نمی کنند برای رنجی که به گاو وارد میسازند ای اهورا اندرزی که به کار آنها پایان خواهد داد و به خاطر اعمالشان و پندهایشان در جنون بدکاری برای آن که کیش خود را تغییر نمی دهند کرها و کورها نابود خواهند شد و آنهایی که قدرت دارند زندگی نمی بخشند سرانجام مقان کاری کردند که پیامبر مزاحم آنها گریخت زرتوشت با اندوه از خود می پرسید به کدام سرزمین بروم در کجا نماز بگذارم؟ والدین و دوستانم مرا ترک می کنند نه همسایگانم مرا میخواهند و نه جباران بدکار کشور ای اهورا مزدا، چگونه میتوانم تو را خوشنود گردانم؟ خود را ناتوان می بینم. فقیر از رمه ها و فقیر از انسان ها. به سوی تو روی کرده میگریم نگاه خود را به من افکن، ای اهورا آنگاه به سوی خاور رفت، به سوی فضای آریایی، این منطقه جغرافیایی که اوستا کتاب مقدس ایرانیان سرزمین مناسبی برای شکوفایی راستی میداند. او به فلات پامیر در منطقه علیه از پناه برد. با گذشت سالها به مععزه کیش خود پرداخت، رمه ها را پرورش داد، با طبیعت پیوند یافت، ضمن آنکه که پیوند و اتحاد دیگری نیز وجود دارد. پیوندی که باید او را با خدایش وحدت دهد که خواستار پشتیبانی او بود. با من که میخواهم تو را چنان ستایش کنم که هرگز اینچنین ستایش نشده ای. با من مانند دوستی با دوست سخن بگو. از من مانند دوستی از دوست حمایت کن. در واقع زرتشت در عین حال خواستار حمایتی سیاسی بود که به او امکان دهد به گسترش آموزش های خود نزد قبایل بپردازد. پس به سوی کسی رفت که با دخترش ازدواج کرده بود یعنی به سوی ویشتاسب شاه خارزم. این شاه که به فضیلت و خرد پیامبر ایمان آورده بود و شاید به سبب معجزاتی که زرتشت از خود نشان داده بود حمایت خود را از او اعلام کرد. جامعهی که از این پس پیامبر را در خود پذیرفت، به طور کلی با جامعه پامیر تفاوت چندانی نداشت خارزم هیچ شهری نداشت که قابل مقایسه با اکباتان باشد فقط دربار سلطنتی زمینه مساعدی برای موعزهی خوب بود با این حال زرتشت بدون چشم پوشیدن از نفوذی که می توانست بر حامی خود و نزدیکانش اعمال کند نخست به جامعه کشاورزی روی آورد که مجموع اطباء ویش را تشکیل میدادند و به آنها آموخت که چگونه چمنزارها را بارور کنند بیگمان زرتشت با تثبیت توجه خود به قبایل می خواست مریدان آینده خود را برانگیزد که تماس خود را با او حفظ کنند زرتشت بی که بخواهد پیوند مردمان خارزم را با طبیعت بگسلد به نحوی میخواست مریدانش از انقیاد نیروهای طبیعی که به ظاهر بر کائنات مسلط بودند رهایی یابند کدام هنرمند نور و ظلمت را آفریده است آموزش زرتشت نخست به صورت پرسش است نخستین چیزها در جهان نیکی کدام است که نخستین بهای پارسایی و نیکوکاری بود. در جهانی مذهبی که نیروهای طبیعی با خدایان گوناگون متعددی پیوند یافته بودند و در زمینه کلی که تقابل نیکی و بدی روز و شب را نشان میداد، پرسش زرتشت نمایانگر دقدقی یک پرستانه است. حسرت وجود موجودی آغازین که بر تمام ایزدان دیگر چیره باشد در این آرزوی وحدت الهی است. اما زرتشت از این فراتر می رود. او می آموزد که نباید تمام نیروهای موجود در طبیعت جنبه ایزدی پیدا کنند بلکه برعکس ایزدان دروغین غیر خدایان ضد خدایان یعنی دیوها نیز وجود دارند. خدای راستین نه یک نیروی مادی یا طبیعی بلکه گوهری اخلاقی و معنوی است. همسان پنداشتن اهورا مزدا و مهر ایزد سلطنت و سازمان در پیامبر واکنشی از خشم و تحقیر پدید میآورد او هرگز از ایزد مهر که همه جا خدای بزرگ شمرده و پرستیده میشد نامی نمی برد. اهورا مزدا سلطنت راستی و دادگری را برپا می دارد، نه فقط سامان جهان را. که به نظر زرتشت امری سانویست و قدرت اخلاقی خدایی مانند خدای او را به خوبی نمایان نمی‌کند این حقیقت چنان برای پیامبر آشکار است و چنان با عقاید مذهبی آریاییان نخستین سازگاری دارد که اوستا به هیچ قانون اخلاقی مشابهی با قانون همورابی یا قانون موسی نمی شود. وجود خداوند خرد و در نتیجه خداوند راستی و دادگری کافی تا نظم اخلاقی را برقرار کند. دیگر نیازی به سخن گفتن از نیکی و بدی نیست، بلکه رجوع به اهورا مزدا رفتار انسان‌ها را تنظیم خواهد کرد. دیوان نیز اگر وجود دارند، پیامبر آنها را ایزدان نمی‌خواند. بلکه آنها نیروهای معارض جهان هستند و میخواهند انسان را از دائیه و رسالت حقیقی او که جستجوی خدای یگانه برای هر چیز اخلاقی است باز دارند. اهورا مزدا برتر از هر چیزی است که در روح انسان ایجاد تزاد کند. او در زمین و آسمان آفریدگار همه چیز است. این از تو میپرسم. درست به من بگو ای اهورا. کیست از آفرینش پدر راستی نخستین؟ کیست که به خورشید و ستارگان راه گردش داد؟ از کیست که ماه میافزاید و دیگر باره میکاهد؟ چه کسی نگه داشت زمین در زیر و آسمانها در بالا که نمیافتند؟ چه کسی آب و گیاه ها را آفرید؟ چه کسی به باد و ابرها تندی پیوست؟ چه کسی روشنایی خوب کنش و تاریکی آفرید؟ چه کسی خواب خوب کنش و بیداری آفرید؟ چه کسی بامداد و نیم روز و شب آفرید که یاد آورند بر را به پیمان؟ زرتشت هرگز دوبنی یا سنویت خاص اندیشه آریایی را به طور کامل کنار نمیگذارد؟ چگونه میتوان تقابل و تعارض میان هستی و نیستی را نه فقط مرگ بلکه آنچه هنوز به وجود نیامده انکار کرد؟ چگونه میتوان تعارض میان نور و ظلمت را نپذیرفت در حالی که روز از پی شب می آید و راستی دروغ را می راند و دروغ نقاب راستی بر چهره می زند؟ چگونه میتوان نپذیرفت که در پس اهورا مزدا دستگاه و دست ایزدان دروغینی وجود دارد که قدرت مادی آنها آشکار است؟ و سرانجام چگونه میتوان نپذیرفت که نیکی زدی دارد که همان بدی است؟ این تعارض و تقابل بنیادی میان دو جهان آیا ترجمانی هستی شناسی دارد؟ آیا به راستی آنچنان که ایرانیان آن زمان می پنداشتند نبردی میان اورمزد اهورامزدا، مظهر نیکی و اهریمن مظهر بدی وجود دارد؟ با این حال در نظام صرف کیهانی، اصل آشتی ای میان اورمزد و اهریمن وجود دارد که همانا ایزد زمان یعنی زروان است. این ایزد که معتقدان به دین مزده یسنا و زرتشتی ها به آن اعتقادی ندارند در اندیشه ابتدایی آریاییان قدرتی بود که نیکی و بدی را زاییده بود. زروانک را نه یعنی زمان بیکرانه مادر زاینده نیکی و بدی تلقی میشد. اما به ویژه زمان یا زروان به وجود آورنده حرکت ستارگان بود که کل جهان را تشکیل میدهند. صفت آشتی دهنده آن روشن است، با این حال نقش او به قلم روی کیهانی محدود می شود و در نظام اخلاقی یا معنوی نقشی ندارد. پس اگر برتری روح آخرین کلمه کیش زرتشت است، یک پرسش واپسین باقی می ماند. آیا چیزی نیست که بتواند شکوه اهورا را محدود کند؟ آیا خداوند خرد جز یک خدای اخلاقی نیست که قدرتهای زیرزمینی، پیوسته با آن در تعارض قرار می‌گیرند. چگونه می‌شود خصلت منحصراً اخلاقی و معنوی اهورا را توضیح داد؟ زرتورش تا آنجا پیش نمی‌رود که خدای خالق نیکی و بدی را تصور کند تا به حد کافی قوی باشد که بتواند بدی را نیز بیافریند. اما او از مفاهیم انتقادی مذاهب آریایی فراتر می رود که میان دو نیروی گیتی توازن برقرار می کنند. زرتوشت خدایی را می پرستد که میان متعارضها حکمیت می کند. او شکی ندارد که این نیروهای متعارض وجود دارند همچنین تردیدی ندارد که دیوها مزاحم خاست اهورا مزدا هستند. اما خداوند خرد، تاروزها حاکم است و این یگان حقیقت را تشکیل می دهد. بیگومان دشوارترین مسئله فهم روابطی است که میان اهورامزدا مزدا و نیروهایی وجود دارد که او بر نبردشان حکمیت می کند. شاید کلید دین زرتشت در همین جنبه ناقص کمالات ربانیست است که تا حدی تصویری از انسان است. پیامبر فریاد میزند ای خداوند خرد، من نیکوسگالی تو را باز شناختم. آموزش زرتشت فقط میتواند نظری و فلسفی باقی بماند. استوره ها و شعائر آن را برای مریدانش قابل درک و پذیرفتنی می کنند. پیامبر ضمن مخالفت با قربانی های خونین و اعمال مستانه جمعی در اثر نوشیدن نوشابه مقدس یعنی ها اوما، فقط به یکی از اعمال اجدادی خود احترام میگذارد و آن ستایش آتش است. فعال کردن مجدد آتش هنگام تحویل زمستانی، انقلاب شتوی، در حالی که طول روزها به نحو خطرناکی کاهش مییابد، مستلزم آغاز مجدد است. به علاوه آتش در نور ستارگان، در گرمای زیر زمین و در پرتو آزرخش ظاهر می‌شود. هیچ فریبی در آن نیست. و او همان دادگری و راستی است از آذر تو که از راستی زورمنده است ای اهورا از آن نیرومندی که پیمان رفته خواستاریم که به دوستان آشکارا رامشدهنده بود آتش نماد رابطه معنوی میان انسان و اهورا مزداست آن که در آغاز به آراستن فردوس با روشنایی بیاندیشد، شد کسی است که از خرد خیش آفریننده راستی است اما آنها در منش خیش به تو اندیشیدم، ای مزدا که توی نخستین و توی پسین و پدر منش نیک. اما پیامبر می افضاید که بشریت آزمایش آتش را تحمل خواهد کرد. نیکان باز به جهان خواهند آمد و بدان برای همیشه نابود خواهند شد. انسانها پس از نبردی سهمناک میان نیروهای نور و تاریکی متحول و دگرگون خواهند شد. سرانجام، اهورا مزدا خدای بزرگ، حامی نیکوکاران و تمام جانوران ظاهر خواهد شد. انسانها که در گزینش خود آزادند، به رغم وجود قدرتهای تیرگی و ظلمت می توانند رهایی یابند. در که جهان به نظر زرتشت در عین حال شامل بینشی درباره یک نظام سیاسی است که بتواند نیکبختی و آسایش همگان را فراهم کند و به ویژه امنیت، دادگری و راستی را برقرار نماید پس لازم است شهریاری نیک و کشور نیک شهریور بنا شود کشور نیک برگزیده شده بهره شایانتر راستی از برای کسی فراهم گردد ای مزدا که با کوشش در کردارهایش بهتری به جای آورد باری این کشور نیک صدهای میان انسانها را در هم خواهد شکست و انتقال پیام پیامبر را به سود همگان تسهیل خواهد کرد پیامبر تا ابد کلید آن جهان سیاسی است که امکان سازمان‌بندی جامعه را فراهم می‌کند پس اینچنین ای مزدا اهورا نخوست بن مای به من کشور مینوی که دارایی شماست و آن اردی بهشت و آن توست، ای سپندارم ببخشای به میانجی بهمن، منش نیک، سود کشورتان را به آن کسی که نیایشگر است. در ذهن ویش ویشتاسب که توانست قلم خود را به آموزش های پیامبر بگشاید، الگوی شاه دادگر و راستی است. او الهام گرفته و امپراتوری از آن اهوراست، اعتقاد زرتشت به خدای یکتا، تقدمی است که برای نیروهای معنوی بر نیروهای کیهانی قائل است. جستجوی شهریاری نیکی که وابسته به خود خدا باشد، پیوسته الهام بخش پیامبر است. خوشبینی معادشناختی یا فرجام شناسانه او، تحقیر او نسبت به قربانی کردنهای خونین عشق او به ارج نهادن به جانوران و بینش او نسبت به یک سازمان اجتماعی و سیاسی که میداند در اختیار خدای خرد است، زرتشت را نه تنها به اصلاحگر مزداکیشی باستان، بلکه به مؤسس اعتقادی نوین تبدیل می‌کند. این اعتقاد پالایش یافته از شهود آریایی های نخستین پیروی می‌کند، ولی برای اولین بار اصل اساسی برتری روح را بر آن می‌افزاید. خواستگاه قدرت. کوروش که در نبردی فاقد اهمیت استراتژیکی علیه تومیریس ملکه ها درگیر شده بود، در سواحل رود جیهون در قلب فضای آریایی اردو زد. این بازگشت به سوی شرق فقط معنایی سیاسی نداشت. البته کوروش انتظار نداشت اقتدارش در شرق امپراتوری به مبارزه طلبیده شود. اما نکته اینجاست که کوروش در این ناحیه گسترده در امتداد رودهای بیشمار خود را در گاهواره اعتقادات اصیل خیش میافت. اگر پاسارگاد زمین نخستین جهش او بود، فضای آریایی سرزمین اولیه‌ای بود که او در آن ریشه داشت و نطفه زندگی پارس‌ها در آنجا بسته شده بود. بروش پس از آن همه ماجرا، فتوحات و افتخارات می توانست به بازنگری راهی بپردازد که به سوی حقیقت در پیش گرفته بود. زمانی که قدرت را در دست گرفت و پس از پدرش کمبوجی شاه آنشان شد، عنوان خیش را مرهون اجداد و تبار خود بود. او با خون خود به نیاکان خیش پیوند داشت. با این حال، این روحیه پدر سالارانه او را از جستجوی تایید مردم بی نیاز نکرده بود. اما پادشاهی از دید خدایان مفهوم دیگری نیز داشت. کروش در تمام مدت جوانی هنگامی که در دشتهای پاسارگاد به سواری می یا کوهای فارس را در می‌نوردید و نیز کمی پس از رسیدن به مقام پادشاهی آگاهی روشنی در باره انقیاد خود نسبت به طبیعت داشت. او مانند همه پارسیان مردی راستگو و درست کردار بود اگر خدای بزرگ اهورا مزدا در نظر آنان در هر تجلی طبیعت وجود داشت و قدرت کاشف راستی را به شخص شاه اعطا کرد ناهید نیز شاهان پارس را به ژرف ترین نیروهای آفرینش و حتی به اساس وجود پیوند میداد افزون بر این با توجه به این که این اله فضیلت جنگجویی داشت شاهان یقین داشتند که به یاری او بر قاسبان بلقوه و انواع دشمنان پیروز خواهند شد بنابراین کورش در سایه سگانه تبار سلطنتی خیش تایید مردم و اتکا به یک قدرت الهی طبیعی شروع به جهانگشایی کرده بود و مانند نیاکانش یقین داشت حقیقتی که او در اختیار دارد با وجود قدرتی در ابعاد جهانی تغییر نخواهد کرد او پس از تصرف اکباتان و ابقای بیشتر مقان در مقامات خود با خدای مهر میترا برخورد کرده بود مهر همتای اهورامزدا یا دست کم به نظر روحانیان و مقان سرور سایر خدایان مادی به شمار میرفت مهر وظیفه آسمانی و ای بر عهده داشت و بر نور و ستارگان حکومت می کرد. او ارباب بزرگ سرنوشت انسانها و در نتیجه سرنوشت شاهان بود. مهر، داورتر، مدیرتر و رزمجوتر از سایر خدایان ایزد نظم اجتماعی به شمار می رفت. مادها او را برتر می شمردند که این بیگمان با زائقه آنها در مورد سازمان و تمایل ایشان به وحدت بخشیدن به قبایل آریاییتبار تبار اطراف یکباتان سازگار بود. کوروش به کیش مهر پرستی گردن نهاد. برای این ایزد که به هر حال ایزدی بیگانه نبود و به اعتقادات ابتدایی ایرانیان تعلق داشت قربانی کرد. آیا از آن زمان تحت تأثیر مذهب طبیعت قرار گرفت و به آن وابسته شد؟ آیا پرستش این ایزد که متوجه حفظ نظم موجود بود و محافظ کاری باعث میشد مفهوم پادشاهی مورد نظر نیاکانش از زمان حقامنش تغییر کند؟ به هر حال، کوروش اجازه نداد چیزی از این تردیدها بروز کند. نخستین نشانه های سیاست مذهبی او روشن هستند. چرا باید با اعتقادات مردمی مخالفت کند که اقتدار او را پذیرفته اند و خود را با تسلط نوین خوب مطابقت دادند، خراج خود را میپردازند و سرباز در اختیار او میگذارند؟ بر برعکس، قربانی کردن برای خدایان مطلوب در مناطق مفتوحه الزام و تجویز یک نظام سیاسی جدید را تسهیل و پذیرش قدرت توسط همگان را توجیه می کند. مقان و مردم این احساس را ندارند که تحت انقیاد در اند. بلکه برعکس توانستند فاتحان خیش را به اعتقادات و کیش خود درآورند چون این پنداری بی گمان را تشویق می کرد به این سیاست آزادمنشانه و در واقع مبتنی بر ضرورت حفظ صلح در کشورهای مفتوحه ادامه دهد. گردآوردن مادها و ایجاد وحدت با آنها در امپراتوری خیش، با تمام اهمیت و عظمت خود دگرگونی قابل توجهی در منطقه ایجاد نکرد. مادها و پارسها از یک ریشه بودند و تغییر رژیم در واقع نوعی تغییر ساده سلسله سلطنتی تلقی شد. اما اشغال لیدی، اصارت کرزوس و جنگهای ساحلی با مهاجرنشینهای یونانی از منطقه دیگری تباییت میکرد. ملل بیگانه باید مطیع میشدند و مذاهب و فرهنگ‌های تا آن زمان ناشناخته باید با مذهب و فرهنگ ایرانی جوش می‌خورد. کوروش به ویژه در مورد یونانیان احتیاط زیادی را رعایت می‌کرد. مگر خدایان آتن و اسپارت به خصوص هاتفان معبد دلفی شکست ایران را آرزو نکرده بودند. با این حال شاه بزرگ آینده حرکتی آشتبیجیانه انجام داد. او به هارپاگ سرداری که عملیات آرامسازی در لیدی را بر عهده داشت دستور داد در ماگنزی واقع در سواحل میاندر معبدی وقف آپولون بنا کند سپس کاهنان معبد را از هر گونه الزام پرداخت خراج معاف کرد این لطف آنقدر مهم بود که چند سال بعد هنگامی که امپراتوری تکمیل شده بود از مرزهای مصر تا رودخانه سند جز دو معبد معاف شده از مالیات توسط کوروش وجود نداشت. یکی معبد یهودیان در اورشلیم و دیگری معبد آپولون در ماگنزی. با این همه این بدان معنا نبود که کوروش به خدای یونان احترام می‌گذارد، بلکه اراده ساده سیاسی و آرامبخشی او را نشان می‌داد. همچنین زمانی که کوروش بابل را فعد کرد، به هیچ وجه نظر خود را درباره خدایان گوناگونی که در مسیر خود با آنها برخورد کرده بود تغییر نداد. اما با ورود به کشور باستانی اکد و سومر پردهای را گشود که تا آن روز گوهر سلطنت را می پوشانید. کوروش یک باره خود را شاه بزرگ اعلام کرد و دست مردوک را گرفت. یک بار نیابت سلطنت را به پسرش کمبوجیه سپرد. یک باره به قالب فرهنگ، خلقیات و عادات فکری بابلیان فرو رفت. به خصوص مفهوم جدیدی از جهان و قدرت تام خود ارائه داد. آیا اعتقاداتی که تا آن روز هدایت گامهای او را بر عهده داشتند تغییر کرده بودند؟ هواداری او از مردوک گوهری مشابه هواداری او از مهر و قربانی کردن در راه ایزد مهر داشت. هر دوی آنها ایزدان برتری بودند که تمام نیروهای کیهانی را در اختیار داشتند و مشروعیتی آسمانی به شاهان عطا می کردند. با این حال در میان دو خدای بزرگ تفاوتی وجود داشت که ماد را از جهان آشوری بابلی جدا می کرد. یعنی تفاوت میان یک پادشاهی کوچک قبایل یک جانشین با یک امپراتوری چند هزار ساله. و رفته رفته این اندیشه به ذهن کوروش راه میافت که قدرت پادشاهی او نه به پیوند پدر سالارانه بستگی دارد نه به تایید همتایانش و نه به ایزدان طبیعی که گرچه خیر خواه او بودند افق دید محدودی داشتند. کوروش در بابل ابزار دست اراده یکتا برای ایجاد شاهنشاهی جهانی شناخته شده بود. و این واقعیت که یهودیان تبعیدی او را فرستاده خدای خود و نجات بخش اقوام از روی یک طرح الهی میدانستند شاید برای کوروش به این معنا بود که سرنوشتش چیزی فراتر از یک بنیادگذار امپراتوری است بدین ترتیب طی چند سال کوروش از برداشت و مفهوم فرهمندی از سلطنت به یک برداشت دودمانی رسیده بود پیش از آنکه به بینش شاه بزرگ با منشه الهی برسد. به این دلیل کوروش هنوز خود را تحت تسلط نیروی باستانی میدانست که نیاکانش برای فرح قائل بودند یعنی فرهمندی که نیرو و قدرت را به شاهان عطا میکرد. وظیفه اخلاقی شاهان در اعمال دادگری و قدرت بر این مفهوم استوار بود. کوروش با رسیدن به کشور ها سرشار از برداشت متعالی نسبت به سلطنت و ذهنی گشاده نسبت به دین جهانی به اعتقادات زرتشت پیامبر ایمان آورد که در همین محل شرق روی بزرگ خیش چند سال قبل از او اندیشه برتری جان و خرد را زیر سایه خدای یکتا موعظه کرده بود همین برداشت از دادگری، همین برداشت از راستی، همین برداشت از شاهنشاهی و همین برداشت از یک خدای اخلاقی و معنوی. البته کوروش با تکیه بر همان اصولی که الهام بخش زرتشت شده بودند، اقوام و ملل را آزاد کرده بود. با این حال، اندیشه دادگری که زرتشت موعظه کرد، در کردار شاه بزرگ بازتاب و استمرار سیاسی داشت. البته کوروش برای رسیدن به یک هدف فوری گاه ناچار بود سیاست را از دین جدا کند. اما شاه بزرگ همان گونه که از آشوریان و بابلیان آموخته بود متقاعد شده بود که قدرت خواستگاهی فوق طبیعی دارد. به نظر زرتشت داوری بر نبرد بزرگی که میان نور و ظلمت میان نیروهای نیکی و بدی جریان داشت به انسان سفرده شده بود. انسانی که نیکی و خرد در نهاد او به ودیعه گذاشته شده بود آیا کردار سیاسی و مذهبی کوروش، پشوا که همین جهان بینی نبود آیا انسان دوستی شاه بزرگ با این آموزش اساسی پیامبر مطابقت نمی کرد؟ شهریار حقامنشی از ناهی تا مهر از مهر تا مردوک راه سپرده تا سرانجام به سلطنت متعالی اهورامزدا رسیده و راه را برای یک تا پرستی گشوده بود ملکه ها فوج مهندسان در امتداد ساحل رود جیهون در کار خود شتاب می کردند. سپاه ایران آماده میشد تا از رود بگذرد و کشور ها را تسخیر کند. پلهای قایقی زیادی به رود انداخته شدند و هیچکس شک نداشت که ملکه تومیریس مغرور مانند بسیاری از شاهان دیگر به زودی مغلوب سواران و پیاده نظامی خواهد شد که جهان را فتح کرده بود. زنی که از همسری کوروش امتناع کرده بود با مشاهده ی حمله قریب الوقوع پیکی نزد شاه بزرگ فرستاد و پیامی داد که هرودوت چنین گزارش می دهد. ای پادشاه مادی ها، تو را اندرز می دهم که از این کار دست بداری. چون به هیچ روی جای اعتماد و یقین نیست که اقدام تو سرانجام مطلوبی داشته باشد. به فرمان بر قوم و ملت خیش خورسند باش و سلطنت مرانیز بر تایفه خودم روا دار. افسوس که حرفم را نخواهی شنود چون به آن چه کمتر از همه چیز توجه داری زندگی در صلح و صفاست پس از من بشنو اگر عزم خود را در زورآزمایی با مساگت ها جزم کرده ای از اقدام طاقت فرسای پلسازی چشم بپوش لشگر من تا مسافت سه روزه از حد رودخانه عقب نشینی خواهند کرد سپس تو پیشروی خود را آغاز کن یا اگر ترجیح میدهی خودت نیز همین اندازه عقب نشینی کنی ما حاضرین در آن سوی رودخانه با تو روبرو شویم نخستین واکنش شاه ایران که مورد تایید سردارانش نیز قرار گرفت این بود که پیشنهاد ملکه ماساگتا را بپذیرد و سپاه حریف را به خارج از سرزمینش بکشاند هنگامی که پارس ها در صدد آن بودند که پاسخی در این جهت برای تومیریس بفرستند، کرزوس عقیده مخالف اظهار داشت و به کورش گفت، به عقیده من اگر بگذارید دشمن به این طرف رودخانه بیاید، این خطر پیش می آید که در صورت شکست نه فقط در میدان جنگ ارسه بر تو تنگ می شود، بلکه کار امپراتوریت نیز لنگ خواهد شد، چون اگر ماساگت ها غالب شوند از پیشروی بیشتر باز نخواهند ایستاد و قلمرو تو را هم مورد تاخت و تاز قرار خواهند داد و هرگاه برعکس پیکار به کام تو برگزار شود این پیروزی نتایج اندکی خواهد داشت بهترین است که تو قدم در خطه دشمن بگذاری و ایشان را در آنجا سرکوب و تعاقب کنی چونان که ملاحظه می‌کنی من نتایج عمل ماساگت ها را با آنچه اطمینان دارم قصد انجام آن را داری مقایسه می کنم. به عبارت دیگر در صورت قلبه تو درست قلب قلم تومیریس را هدف قرار می دهی و بنابر آنچه عرض شد برای کورش فرزند کمبوجیه مایه ننگ خواهد بود که به دست زنی شکست یابد. از این رو، در زمان است که از رودخانه عبور و تا حدودی که دشمن عقب نشینی کند پیش کنی آنگاه چنانچه لازمه فن جنگ و سرداری است بر آنها چیره شوی کروش که به ندرت عقیده خود را تغییر می داد با استدلال شاه سابق لیدی متقاعد شد پس به تومیریس پیغام داد که عقب نشینی کند تا بتواند نبرد را در خاک او آغاز کنند و ارتش ایران بدون نبرد از جیهون عبور کرد در نخستین شب ورود به سرزمین ماساگت ها خواب نگران کننده ای دید او در خواب پسر هیستاسب داریوش جوان را دید که دو بال در شانه اوست که یک بالش بر آسیا و بال دیگرش بر اروپا سایه انداخته است کوروش به این نتیجه رسید که شاهزاده جوان علیه او توطعه می کند و به هیستاس دستور داد که به پارس بازگردد و داریوش را برای بازپرسی نزد او بیاورد. پدر داریوش قبل از عظیمت با نهایت ادب اظهار داشت شهریا را به حق خداوند سوگند که هیچ پارسی زنده بر ضد تو قیام نخواهد کرد و اگر کسی چنین اندیشه کند کاش مرده باد. چگونه این کار امکان وقوع دارد؟ تو اهالی پارس را که در قید بندگی بودند آزاد ساختی، ایشان را از زلت فرمان برداری به عزت فرمانروایی روایی ترقی دادی. با وجود این، اگر در خواب دیده باشی که فرزند من بر ضد تو خیال خیانت دارد، من او را تقدیم پیشگاهت خواهم کرد، تا آنچه فرمان همایونی باشد، در او اجرا شود. آنگاه کوروش. به نگرانی مهمتر خود که مسئله قلبه بر ماساگت بود، بازگشت. او پس از سه روز حرکت در خاک دشمن باز به توصیه کرزوس آن شد که دامی برای تومیریس بگسترد. او بسات زیافت بزرگی را برپا داشت که در آن مقادیر زیادی خوراک و شراب برای تعداد کمی از افراد تهیه شده بود و خود با لشگریان در فاصله کمی استقرار یافت. ماساگت در دام افتادند و به قتل عام چند ایرانی حاضر در زیافت پرداختند و تمام شب را به خیال پیروزی قطعی بر برکوروش به فرماندهی اسپارگاپیس پسر ملک تومیریس به خوردن و نوشیدن پرداختند. اما چند ساعت بعد در سپیددم سپاهیان شاه بزرگ به آن محل بازگشتند، گشتند، ها را کشتند و فرمانده نگونبخت آنها را اسیر کردند. ملک تومیریس که از این شکست و به خصوص اسارت فرزند خود خشمگین شده بود به شاه بزرگ پیشنهاد اقب نشینی شرافتمندانه کرد. اما نمی توانست نقش شراب را در این میانه نکوهش نکند و به این ترتیب به همان عقیدهی رسید که کوروش بارها در مقابل سپاه دشمن به آن رسیده بود. کوروش که فقط آب می نوشید، امروز ناچار بود تحقیر ملکه کوهنشینی را تحمل کند که اکنون همان روحیهی را داشت که در گذشته شاه جوان آنشان داشت. ای کوروش تشنه بخون، به آنچه روی داده است مغرور نشو. اگر توانستی به کمک شراب که را نیز دیوانه می کند و به برکت چنین زهری با حیله و نپیکار در میدان نبرد بر پسر من پیروز شوی، اکنون به تو اندرز می‌دهم و گفتار مرا خوب بشنو. پسر من را به من باز پسته و به کشورت بازگرد. گرد. به اهمیت هشدار ملک توجهی نکرد و آماده نبرد شد. در همان هنگام اسپارگاپیس که از مستی خارج شده و به وضع خود پیبرده بود از شاه بزرگ خواست او را آزاد کند و قول و زنجیر از دست و پایش بردارد. کوروش بنا به روحیه بخشنده و بزرگوار خود این درخواست را اجابت کرد اما فرزند تومیریس به محض آزاد شدن دستهایش خود را کشت و این امر باعث اندوه کوروش و خشم شدید تومیریس شد آنگاه نبردی چنان شدید در گرفت که سابقه نداشت به گفته ی هرودوت، هیچگاه در تاریخ باستان نوردی به این شدت، خشونت و با این همه خونریزی دیده نشده است. نخوست دو سپاه از هم فاصله گرفتند و باران تیر از هر دو سو باریدن گرفت. وقتی تیردانها به کلی خالی شد، دو طرف گلاویز شدند و جنگ تن به تنی آغاز شد که شدت و خشونت آن تا آن زمان بی سابقه بود، چنان که گویی دو طرف میپنداشتند نبرد آنها سرنوشت جهان را تعیین خواهد کرد تا مدتی نتیجه نبرد نامعلوم بود پیوسته زنده ها جانشین کشته ها میشدند و از کشته پشته میساختند با این حال زمانی فرا رسید که سرنوشت کار خود را کرد در صفوف ایرانیان از دلاوری کاسته شد خود کوروش به سختی خسته و فرسوده شده بود های تومیریس شادمان از اینکه در آستانه قلبه بر ارباب جهان هستند، بر شدت حملات خود افزودند. آنها هم از استقلال خود دفاع می‌کردند و هم می‌خواستند شرف ملکه خود را که به آن توهین شده بود نجات دهند و انتقام خون شاهزاده و رفقایش را بگیرند که با تزویر و بدون نبرد اسیر تأثیرات شیطانی شراب شده بودند. رفته رفته پارسیان و متحدان ایشان حالت بازنده تر و شکست خورده تری میافتند. آخرین حملات بیش از پیش مرگ بار بود. افراد اندکی هنوز سر پا بودند. بعد ناگهان خاموشی بر همه جا چیره شد و پیکار متوقف گردید. ایرانیان شکست خورده بودند. وقتی شب فرارسید کمبوجیه به جستجوی جسد پدرش آمد. فقط چند تن از افراد گارد سلطنتی با او بودند در مقابل ماساگتها پیروزی خود را جشن گرفتند و تومیریس تهدید کرد که اگر جسد کوروش را بیابد آن را غرق در خون خواهد کرد در شب سیاه سپاه کوچک کسانی که در گذشته جهان را فت کرده بودند در حالی که به چند ده تن کاهش یافته بود به رهبری کمبوجیه از رود جیهون گذشت مردانی که در گذشته هرگز تعم شکست را نچشیده بودند پیکر کورش شاه بزرگ را حمل می کردند. پیکر کسی که حقیقت قدرت را کشف کرده بود کسی که فهمیده بود اربابان سرنوشت انسان فقط از انگیزه ها یا حسن نیت خود پیروی نمی کنند بلکه ملزم به سازی اقوام و ملل هستند و اگر شاه بر فراز انسانها قرار دارد برای آن است که نگرانی آنها را از ناشناخته ها تسکین دهد و رفاه و آزادی را برای آنها فراهم آورد. اینکه کوروش در میدان نبرد کشته شد در این لحظه فوقالعاده بدون دوست و در میان حلقه دشمنان چیزی شگفت و دور از انتظار نبود. سرانجام هر کسی مرگ است. شکست گرچه سخت بود، اهمیت چندانی نداشت. امپراتوری همچنان به حیات خود ادامه میداد. پس گفتار تخطی ناممکن در افق خاور آخرین دسته های سپاه ایران دیده میشد. سپاه کوچکی به فرماندهی داریوش سوم آخرین پادشاه دودمان هخامنشی میخواست به بیابانهای پهناور فضای آریایی پناه ببرد. که هفت قرن پیش مسیر حرکت فاتحانه قوم او را به سوی باختر تشکیل میداد. از این پس پیروزی اسکندر مقدونی اجتناب ناپذیر بود فرماندهی او امپراتوری حخامنشی را در هم شکسته بود و طرح آشتی دادن شرق و غرب که از زمان حرکتش از قاره اروپا انگیزه او بود به تحقق می پیوست دویست و پنجاه و هشت سال پس از موعظه زرتوشت دویست سال پس از مرگ کوروش، جوان مقدونی مسیر تاریخ را واژگون کرده و به جهانگشایی ایرانیان پایان داده بود. سربازان اعقاب شاهان آنشان در قباری که از گریز آنها برپا خواسته بود با کشف ناگهانی بیهودگی اقب از حرکت باز مانده بودند. آیا می توانستند امیدوار باشند با توجه به اینکه هنوز شاهشان زنده بود به رغم شکست، قدرت خود را بخشند در حال حاضر کسانی که داریوش سوم را احاطه کرده بودند بی آنکه بتوان انتظار داشت آخرین جرگه وفاداران به او بودند دیگر انتظاری از اعقاب دوردست کوروش نداشتند به سوس شاهزاده بلخی و پسرعموی شاه جرأت کرد اعلام کند که داریوش باید به نفع او استعفا دهد تا بتوان آنچه باقی مانده است نجات داد شاه ایران خشمگین شد و به سوس وانمود کرد که میخواهد بگریزد. اما به کمک زیردستانش نبرزن شاهزاده مادی و بارسنتس حکمران بلخدرانجیانا به شخص داریوش حمله ور شد. شاه در حالی که به عرابهش قل و زنجیر شده بود، شاهد ناتوان از هم قطعی سپاه خود شد. اسکندر با اطلاع از این وضعیت با شتا پیش تاخت تا ایرانیان را تارمار و کند نبرد نابرابری در گرفت سوس، نبرزن و بارسنتس که از این وضع بیمناک شده بودند نخست بر آن شدند که برای آزادی خود به معامله بر سر گروگان خیش بپردازند سرانجام در حالی که تردید داشتند شاه مقدونی چنین معاملهی را به بر سر داریوش ریختند و در حالی که او را به عرابه خود بسته بودند تا سرحد مرگ مجروحش کردند. سپس راه گریز در پیش گرفتند. اسکندر به محض آن که به محل واقعی رسید از اهمیت واقعی غمانگیز مطلع شد. او که تحت تأثیر رؤیای صلح خیش بود به آهستگی بالا پوش را از تن بیرون آورد و روی پیکر شاه محتزر انداخت کسی که به تازگی لیدی بابل و ماد را فت کرده بود با این حرکت در آستانه ورود به قلب آسیا به سپاهیان خود و ایرانیان حاضر نشان داد که میخواهد به نوبه خود زمانی که آخرین حخامنشی نفسهای واپسین را می کشد اصر جدیدی مبتنی بر احترام به مغلوبان را آغاز کند. کمبوجیه چند ساعت پس از بازیافتن پیکر کوروش در میدان نبرد نزدیک ساحل جیهون راه پاسارگاد را در پیش گرفت. او اطمینان داشت که شکست نظامی در برابر ماساگت ها هیچ تأثیر بدی بر بقیه امپراتوری نخواهد گذاشت و او میتواند تواند جانشین و نایب و سلطنی کشور باقی بماند و تاجگذاری کند، و راه فتح جهان را که پدرش آغاز کرده بود، ادامه دهد. اما همه جا و به ویژه در شرق ایران آشوبهایی ایجاد شد. مرگ کوروش و شکست سپاه او از یک ملت شرقی، مللی را که تا آن زمان با شور و اشتیاق به اقتدار شاه بزرگ گردن نهاده بودند، به حیجان آورد. شهریار جدید ایران، بدون آنکه به این جنبش ها توجه چندانی نشان دهد ترجیح داد به یک جنگ فاتحانه ی حیثیت آفرین بپردازد مگر او از سوی پدر مأمور نشده بود لشکرکشی به مصر را تدارک ببیند و در ذهن خود بنیادهای امپراتوری را استوارتر گرداند و دیگر آنکه مگر کمبوجیه نبود که در کودکی به مادرش کاساندان وعده داده بود که کشور فرائنه را تارمار کند مصریان از زمانی که کوروش سارد را تسخیر کرده بود از قدرت فضاینده ای ایرانیان حراسان بودند و با شاه جزیره ساموس به نام پولیکرات پیمان اتحاد متقابل بسته بودند. اما هنوز ایرانیان به آستانه غزه نرسیده بودند که یونانیان به مصریان خیانت کردند و از کمک به آنها سر باز زدند. در این زم فرعون آماسیس درگذشت و پسر و جانشینش پسامتیک سوم رقم همه چیز بر آن شد که مقاومتی را سازمان دهد اما کمبوجیه که پا جای پای پدر می نهاد، ارتشهای حریف را شکست داد منفیس را اشغال کرد پسامتیک را اسیر و او را به شوش تبعید کرد با وجود این در شرق امپراتوری ایران همچنان حالت آشوب برقرار بود ساتراب ایالات شرقی دومین پسر کوروش بردیا از سوی برادر متهم شد که در ایجاد این شورش ها دست داشته است بنابر این شاه که بیم داشت بزرگواری بردیا که او را مانند کوروش محبوب و اقتدار شاه را تهدید کرد باعث دردسر شود فرمان داد مخفیانه او را به قتل برسانند آنگاه آرامش بازگشت کمبوجیه در مصر نخست سیاست کورش را در پیش گرفت. به خدایان مصری احترام گذاشت، یک کارمند بلند پایه مصری را مأمور رسیدگی به اوضاع جاری کرد و فرمانی برای اصلاحات به سود مردم مصر صادر نمود. سپس با این اندیشه که راه شاه بزرگ را ادامه دهد، تصمیم گرفت به فتح کشور کارتاش بپردازد که بر مدیترانه غربی و لیبی تسلط داشت. عملیات علیه غرب موفقیت آمیز نبود ولی یونانیان این مناطق در برابر کمبوجیه سر اطاعت فرود آوردند. انگاه شاه جدید به سوی هبشه حرکت کرد. نتیجه لشکرکشی فاجعه آمیز بود. نه تنها کمبوجیه به هدف خود نرسید و بیشتر سپاهیان خود را از دست داد، بلکه در این احوال اخبار بدی از ایران رسید که نشان میداد توطئه ای علیه او انجام شده است. موقعی به نام گئومات که بسیار به برادر شاه بردیای متوفا شباهت داشت برای آنکه قدرت را به دست گیرد ادعا کرده بود که بردیاست. است. در بازگشت به منفیس در حالتی از خشم شدید سیاست مذهبی کوروش را که خود آنقدر طرفدار آن بود کنار گذاشت. دین مصریان را به نحو زنندهی به ریشخند گرفت، بیشتر معابد را خراب کرد و حتی با ضربه خنجر گاو مقدس مصریان، گاو آپیس را به قتل رسانید. با وجود این و بدون شک، با یادآوری محبتی که پدرش نسبت به یهودیان داشت، معبدی را که مهاجران یهودی در الفانتین از روی الگوی معبد اورشلیم ساخته بودند، ویران نکرد. در راه بازگشت به ایران و در میان کویر پسر کوروش در جریان بحران تازه‌ای از خشم که دچارش شده بود تصادفاً خود را مجروح کرد و بدون آن که بتواند به رؤیایش تحقق بخشد درگذشت. اکنون امپراتوری ایران از سوی غرب تا سرحدات می رسید و تمام مصر را نیز شامل میشد. پس از مرگ کمبوجیه به رقم دسیسه های گعومات ایرانیان نسبت به حخامنشیان وفادار ماندند. چون شاه فرزندی نداشت، شاهزاده جوان داریوش که از خاندان حخامنشی بود در 29 سالگی به پادشاهی برگزیده شد و این همان داریوشی بود که کروش در خواب پنداشته بود علیه او توطعه می کند. داریوش جوان طی مراسمی که او را در معرض امتحان الهی قرار میداد به شاهی برگزیده شد. زیرا بنا به عهدی که داوطلبان شاهی بسته بودند، اسب هر کس که زودتر شیه میکشید شاه میشد و اسب داریوش در سپید دم در محل موعود نخستین اسبی بود که شیه کشید. داریوش یکم به محض آنکه به قدرت رسید، گعومات قاصب را اعدام کرد و بدین گونه فرمان روایی ادامه یافت. اما یک بار دیگر قانونهای شورش در سراسر امپراتوری پدید آمد. چونین چنین میپنداشتند که از قید سوگند وفاداری به کوروش و کمبوجیه آزاد شدهاند. مشروعیت شاه جدید در همه جا پذیرفته نشد و شورشیان او را به مقام پادشاهی میدانستند. در ایلام شورش به زودی سرکوب شد، اما در بابل چنین نبود. فردی خود را از اعقاب نبونید نامید و به نام نبوخذنصر سوم اعلام پادشاهی کرد. داریوش یکم از فراد گذشت، فرد شورشی را شکست داد و اعدام کرد. در حالی که در ماد و ارمنستان نیز، توتگری به نام فرورتیش سر به شورش برداشته بود. شاه جدید ناچار شد، به سوی شمال حرکت کند و در آنجا فرد شورشی و هوادارانش را به مجازات مرگ برساند. در شرق، پدر شاه، هیستاسپ، ساتراپ پارت و هیرکانی، علیه یاغی دیگری که او نیز ادعا می‌کرد بردیاست وارد نبرد شد و در شرق تازه آرام شده بود که بابل یک بار دیگر تقیان کرد و یک نبوکدنصر چهارم خود را شاه کلده اعلام نمود. بدین ترتیب داریوش 2 سال اول سلطنت خود را به سرکوب شورش‌ها و رخنه‌های پرداخت که در دژ استوار سلطنت هخامنشی ایجاد شده بود. اما سرانجام با سرسختی و استواری خود توانست سراسر کشور را آرام کند او برای گرامی داشت پیروزی خود فرمان داد بر تخت سنگ بزرگی بر سر راه اکباتان به پارس در بیستون در سطحی به مساحت چهل متر یک نقش برجسته کند کاری کنند که بر روی آن تصویری نقش شده بود که اهورا مزدا را حافظ شاه بزرگ و بردیای دروغین و سایر شورشیان را در پای او نشان می داد. در پیرامون آن، سنگ نبشتهی به سه زبان پارسی باستان، بابلی و ایلامی نوشته شد که شرح شورشها و به سلطنت رسیدن داریوش بود. آشوب و ناآرامی کلی که داریوش بر آن غلبه کرد، به یهودیه نیز سرایت نمود. نخبگان یهودی که تازه از بابل بازگشته بودند ضمن اطاعت از مشیت خداوند و فرمانهای کوروش تمام انرژی خود را وقف بازسازی معبد اورشلیم کردند با این حال این فکر که مبادا امپراتوری ایران زیر ضربات شورش‌های گوناگون فرو بپاشد دغدغه قدیمی محرک یهودیان برای استقلال را بیدار کرد و احترام شدید آنها نسبت به کوروش کاهش یافت برخی شروع به بیان این مطلب کردند که زر و بابل از اعقاب داوود است و باید خود را پادشاه اورشلیم اعلام کند. این بازگشت به سیاست با تضعیف تقریبی وجود انبیا و پیامبران نیز قابل توضیح است. تا وقتی ابریان در بابل زندگی می انبیا برای پیشگویی زمانهای آینده انگیزه کافی داشتند. اما اکنون که یهودیان آزادانه به بازسازی معبد مشغول بودند، به ظاهر دیگر نیازی به پیشگوییها و وعده های انبیا نداشتند. رفته رفته انبیا تبدیل به اولیا و پیامبران تبدیل به کاهنان شدند. خود از رای نبی که بعدها به اورشلیم آمد، بیشتر در صدد بازسازی گذشته بود تا تحریزی آینده. او تمام قطعات پراکنده اسفار موسی را جمع وری کرد و به مقایسه و سنجش روایات مربوط به های شاهان اسرائیل پرداخت و آشکارا مقررات حقیقت را راهنمای زندگی ابریان اعلام کرد. او به عنوان کاهن و قانونگذار ازدواج میان یهودیان با بیگانگان را محکوم کرد و نسبت به نوکیشان نگرشی تا حدی محتاطانه و منفی در پیش گرفت. و از پذیرش سامریان در میان امت اسرائیل خودداری ورزید دوباره مانند هزار سال پیش در پای کوه سینا قوم بنی اسرائیل قانون را پذیرفتند جز استقرار یک شاه جدید اسرائیلی که در شخصیت زر و بابل متجلی شده باشد یهودیان چه آینده بهتری می توانستند تصور کنند در سال 520. در حالی که کار بازسازی معبد هنوز تمام نشده بود، ساتراب ایالت واقع در شمال فرات به نام تاتنای که احتمالاً همسایگان دشمن اسرائیل او را تحریک کرده بودند، به اورشلیم آمد و سوال کرد که چه کسی اجازه داده است یهودیان خانهی وقف خدای خود بسازند؟ بازگشتگان به وطن پس از یادآوری اینکه که معبد را قرنها پیش یک شاه بزرگ اسرائیلی ساخته است، و شاه بابل که مردم ابری را به کلده تبعید کرده آن را ویران نموده بود، تأکید کردند که شاه بزرگ ایران کوروش دستور بازسازی آن را داده و یهودیان در واقع از فرمان او اطاعت کرده اند. تاتنای که به سخن آنها اعتماد نداشت، نامهای به شاه ایران نوشت و از او پرسید که آیا درباره فرمان کوروش چیزی شنیده است و اگر چنین است آن را تأیید کند. در اکباتان نسخه ای از فرمان مشهور بنیادگذار امپراتوری ایران را یافتند آنگاه تاتنای اجازه داد کارها از سر گرفته شود سند کشف شده در زمان داریوش تا حدی با فرمان کوروش تفاوت داشت آنگاه داریوش پادشاه فرمان داد تا در کتابخانه بابل که خزانه ها در آن موضوع بود تفحص کردند و در قصر احمدتا واقع در اکباتان که در ولایت مادیانه است تومار یافت شد و تذکرهی در آن بدین مضمون مکتوب بود. در سال اول کوروش پادشاه همین کوروش پادشاه در باره خانه خدا در اورشلیم فرمان داد که آن خانه که قربانی در آن میگذرانیدند بنا شود و بنیادش تعمیر گردد و بلندیش شست زراع و ارزش شست زراع باشد. با سه صف سنگهای بزرگ و یک صف چوب نو و خرجش از خانه پادشاه داده شود و نیز ظروف طلا و نقره خانه خدا را که نبوکود نصر آنها را از هیکل اورشلیم گرفته به بابل آورده بود پس بدهند و آنها را به جای خود در هیکل اورشلیم باز برند و آنها را در خانه خدا بگذارند تفاوت میان این دو متن چگونه قابل توضیح است کوروش نخست نام خدای اسرائیل را برده بود حالان که در فرمان پیدا شده در اکباتان این نکته دیده نمیشد. پس میان متن فرمانی که سلطنت خدای ابریان را پذیرفته بود و نقل آن عدم تطابقی وجود داشت. به علاوه در فرمانی که ده سال بعد پیدا شده بود ابعاد معبد ذکر شده بود حالان که فرمان قبلی اشارهی به آن نداشت. داریوش دوباره با شتاب نظم را برقرار کرد البته نه زور زیرا ابریان در اندیشه شورش مسلحانه نبودند بلکه با تایید فرمان مشهور کوروش بدین ترتیب یهودیان به سر کار اولیه خود که بازسازی اورشلیم بود بازگشتند سال نوزده، وقف معبد بود که 500 سال بعد عیسی ناصری به آنجا رفت و در سال هفتاد میلادی تیتوس رومی دوباره آن را ویران کرد داریوش برای از سرگرفتن دستاوردهای کوروش آزادی داشت اما آیا سیاست آزاد منشانه وحدت دهنده شرق یعنی کوروش هنوز قابل اجرا بود؟ شورش هایی که در امپراتوری رخ داده بود ثابت میکرد کرد که دیگر نمی شود اجازه داد مانند زمان کوروش فرمانداران عملا در کردار خود آزاد باشند فقط نام داریوش برای وحدت بخشیدن به ملل کافی نبود. نقشه جدید سیاسی داریوش عبارت بود از ایجاد دولتی متمرکز و ادامه فتوحات و کشورگشایی ها در سرزمین دوردست برای خاموش کردن هر گونه مخالفت در ایران. بنابراین او که نگران نظم داخلی بود برای فرمانداران ساترابی یک فرمانده نظامی تعیین کرد که مستقیماً در برابر شخص او مسئول بود. همچنین یک کارمند بلند پایه را معمور وصول مالیات نمود و بر تعداد بازرسان خود که پیوسته در سراسر امپراتوری مسافرت می افزود. پیشرفت های اقتصادی با بهبود وضع راه ها تسهیل شد. در حالی که کاروان برای طی مسافت میان سارد و شوش که فاصله آن از جاده شاهی 2683 کیلومتر بود، نود روز یا سه ماه وقت صرف می کردند، پیک های شاهی همین مسافت را طی یک هفته در می در مورد ارتباط میان مرزهای مصر و منتها علیه شرقی امپراتوری نیز و از به همین انبال بود. کشورگشایی داریوش بر وسعت امپراتوری بسیار افزود، امپراتوری ایران از شرق، از شمال شرقی و از غرب به سرحداتی رسید که بزرگترین امپراتوری جهان آن زمان را تشکیل داد. با وجود این، شاه حخامنشی میخواست نقشه بزرگ خود را در اروپا تحقق بخشد. شاه جدید بر آن شد که یونان را از منابع خوراکی گندم و به چوب نجاری که برای ساختن کشتی‌های جنگی ضروری بود، محروم کند، بنابراین در دشتهای وسیع روسیه جنوبی، دریای سیاه و یونان مستقر شد. وقتی این عملیات انجام شد، داریوش ارتشی مرکب از 700 هزار سرباز گرد آورد و از طریق پلهای قایقی آنها را از تنگه ها عبور داد. ایرانیان تراکی شرقی را اشغال کردند و رهسپار دهانه رود دانوب شدند، متاسفانه حملات سکاها داریوش را وادار به اغب نشینی کرد. او هشتاد هزار سرباز را از دست داد اما تراکیه به امپراتوری ایران زمیمه شد. نتیجه مورد نظر حاصل شده و شاه ایران وارد اروپا شده بود. شورش یونانیان ایونیه به سرعت سرکوب شد. حالان که در یونان حتی آتن و اسپارت پیوسته به دشمنی با یکدیگر ادامه میدادند و در آتن حزب جوان دموکرات در پیکار با کاران بود. داریوش به حمله دیگری پرداخت. ناوگانی مرکب از 600 کشتی به جلوی کوه آتوس رسید. پادشاه هخامنشی امیدوار بود این قدرت نمایی برای تشویق حزب دموکرات که طرفدار اتحاد با ایران بود کافی باشد تا بتواند به قدرت برسد. اما طوفان شدیدی برخواست و بیست هزار سرباز و نیمی از ناوگان ایران از بین رفتند اکنون لشکر کشی سومی لازم بود داریوش در میان گارد شخصی خود هنگ جاوید فرماندهی سپاهی را بر عهده داشت که نزدیک ماراتون از کشتیها پیاده شدند آتنیان که از ویران شدن معابد خود توسط یک سردار ایرانی خشمگین بودند، تصمیم گرفتند بدون آن که منتظر کمک اسپارتیان بمانند به سپاه ایران حمله ور شوند. در این پیکار پیروزی از آن یونانیان شد. در همین زمان شورشی در مصر در گرفت و داریوش با شتاب به آسیا بازگشت. پیروزی ماراتون موجب وحدت یونانیان شد، اما قدرت ایرانیان آسیبی جدی ندیده بود. داریوش هنگام مرگ میتوانست بر خود ببالد که دهنده راه کوروش بوده است. او در غرب، در شرق و در اروپا های پهناور تازه‌ای را فت کرده، سازمان اداری بینزیری برای شاهنشاهی ایران به وجود آورده و قانونی دادگرایانه به سبک همورابی اعلام کرده بود، کاری که کوروش نکرده بود. بر برکتیبه روی سنگ قبر داریوش نوشته شده است خدای بزرگ اهورا مزداست که آبها را آفرید که این زمین را آفرید که آدمیان را آفرید و نیکبختی را به انسان اتا فرمود. که داریوش شاه شاه یگانه شاهان متعدد را آفرید که بر شمار بیشماری فرمان میراند من داریوش شاه بزرگ شاه شاهان، شاه کشورهای جهان با همه زبانها، شاه این ناحیه دوردست و پهناور، پسر هیستاس به هخامنشی، پارسی، پسر پارسی، داری و شاه گوید، آنچه بدی به کار رفته بود، من به نیکی بدل کردم. مناطقی که بین آنها درگیری بود و همدیگر را می آن مناطق به لطف اهورا مزدا، در آنها دیگر هم دیگر را نکشتند و هر یک را من به جای خود مستقر کردم و آنها تصمیمات مرا اجرا کردند زیرا که قوی ضعیف را نمیزند و قارد نمی کند داریو شاه گوید اهورا مزدا با همه بقان مرا حفظ کنند من و سرای من را و لوهی را که نوشته شده است خشایارشاه پسر داریوش که منش تأثیرپذیری داشت شیفته سرمشق پدر خیش بود او پس از سرکوب شورش مصر دیوارهای شهر بابل را نیز که تقیان کرده بود ویران کرد و در صدد بهره برداری از مشاجری که یونانیان اروپا داشتند بر نیامد اما سرانجام یک طرف متخاسم او را به ادامه دستاوردهایی که داریوش آغاز کرده بود وادار کردند یعنی انقیاد اروپا ارتشی عظیم مرکب از نمایندگان یا سربازان چهل و شش ملت و به فرماندهی بیست سردار ایرانی به سوی یونان حرکت می کند فنیقیان متحدان خشایارشا پلی از قایق ها می سازند که به ارتش ایران امکان می دهد از تنگه 7 هفت روز عبور کنند تصالی و مقدونی مقاومتی نمی کنند و یونانیان شمال تسلیم می شوند اما آتن و اسپارت که برای نخستین بار با هم متحد شدهاند، تصمیم به دفاع میگیرند و در تنگی ترموپیل به انتظار دشمن کمین می کنند. در این ضمن، طوفانی در میگیرد و به ناوگان ایران آسیب می رساند. یونانیان در ترموپیل در آستانه پیروزی هستند که سربازان خشایارشا به برکت خیانت یک یونانی، سربازان هلن را شکست می دهند و پیروز می شوند. پادشاه ایران وارد آتن می شود و یک حریق به ویرانی آکروپول، معابد و خانه های مسکونی می انجامد. یونانیان هنوز به پیروزی در دریا امید دارند. ناوگان آنها در سالامین متمرکز می شود. در آنجا، در برابر خشایارشا که روی تختی بر بلندی نشسته و ناظر بر جنگ است، نیروی دریایی یونانیان نیروی دریایی ایران را درهم هم شاه بزرگ یک سوم از تجهیزات خود را از دست می دهد. با این حال این بار نیز شکست ایران قاطع نیست. ارتش ایران تمام کشور یونانیان را اشغال می کند در حالی که در همه جا مقاومت وجود دارد. اما خشایارشاه که از شکست سلامین تکان خورده است به آسیا باز می گردد. او به یونانیان پیشنهاد صلح می کند و وقتی با امتناع آنها روبرو می شود به حمله می پردازد. در پلاته شکست می‌خورد و ناوگانش در میکال نزدیکی ساموس در هم کوبیده می شود. این نگونبختی واقعی است. اروپا آسیا را تا بالای هلسپونت یا داردانل عقب می‌رانند. داریوش با عبور از تنگه‌ها که اروپای جوان را از آسیای باستانی جدا می کرد، فقط عمل فاتحانه‌ای انجام نداده بود. بلکه نظم جهانی را دگرگون کرده بود که تا آن زمان هیچ کس از آن تخطی نکرده بود. شاه حخامنشی با ایجاد پلی میان از فضای خود خارج شده بود تا به فضای بیگانه گام بگذارد. کوروش نیز پس از عبور از جیهون برای حمله به ها مرده بود. وقتی خشایارشا کوشید دو ساحل داردانل را به هم پیوندد، بیدرنگ شکست خورد. این تخطی فضایی در این حال تخطی از یک فضای الهی و تجاوز نسبت به خدایان محسوب می شود به ترتیب تمیستوکلس رهبر حزب دموقرات ها که به آتنیان اندرز داده بود تمام کوشش خود را متوجه دریا کنند و بندری در پیره بسازند فردای پیروزی سالامین به طور رسمی به آنها اعلام داشت حسادت خدایان و قهرمانان نخواسته است که یک انسان واحد بر آسیا و اروپا فرمان رواهی کند از زمان جانشینان حخامنشی پس از خشایارشاه اردشیر یکم داریوش دوم اردشیر دوم اردشیر سوم و بالاخره داریوش سوم تاریخ پیوسته یک مضمون داشت سرکوب شورش ها دادن به مرزها آزاد کردن ملت ها اداره امپراتوری، توسعه اقتصادی، سهم خدایان و بالاتر از همه در نظر داشتن اهورا احترام به اهورامزدا، سرانجام و بویج احترام به شخص شاه، مظهر و نماینده قدرتی برتر که به زمین فرستاده شده بود تا خرد فضیلت پادشاهی را به انسانها نشان دهد. همه اینها خود را اعقاب و وارسان کوروش می ولی هیچ که از آنها نتوانستند کاملا به رویای قدیمی آزادی ملتها که در ذهن اولین شاه بزرگ بود تحقق بخشند. وقتی اسکندر مقدونی به حرکت جنونآمیزی که قرار بود او را به مرزهای چین برساند اقدام کرد، هدفش آشتی دادن مردمان اروپا و آسیا بود. باری به محض آنکه قدم به قاره آسیا گذاشت ارتباط خود را با تاریخ یونان قطع کرد تا به حلقه زنجیر اساسی تاریخ ایران تبدیل شود او با گام نهادن به بازی شاهان مشرق زمین مرید خالق و ابزار این بازی شد آیا او یک پیامبر بود اسکندر هنگامی که در حدود بیست سالگی کشورش را ترک می کرد، خود را قبل از هر چیز یک فرمانده جنگی می دانست که شیفته فتح مشرق زمین است. هیچیک از سربازان سپاه او یا کسانی که از لشکرکشی او حمایت کرده بودند، شک نداشتند که انگیزه ماجراجوی او خصلتی نظامی دارد که او می خواهد میهن خود را از خطر توسعه طلبی ایرانیان نجات دهد و به منبع خطری دست یابد، که یونانیان را تهدید میکرد. با این حال به محض که اسکندر از تنگه ها عبور کرد به این حقیقت سیاسی پی برد که هیچ چیز با بینی های او جور در نمی آید. پسر فیلیپ چند ماه پس از اولین تاخت و تازها در سرزمین آسیا دریافت که دیگر شاهی طبق الگوی جبارانی نیست که بر یونان حکومت میکردند. البته او می رفت که شاه شود اما شاهی با الگوی شرقی در شکوه و راز او برای متقاعد کردن هزار و یک ملتی که میخواست بر آنها حکومت کند ناچار بود بنا به عادات محلی به قربانی بپردازد، جامعهایی با آرایهای شاهان شرقی بپوشد و رفتار خود را با رفتار شاهان ایران، آشور و بابل هماهنگ کند. روح شاه مقدونی به طور نامحسوسی به این اندیشه رسید که با اندیشه ملل اروپایی بیگانه بود و آن اینکه قدرتی برتر از قدرت انسان به شاه اقتدار سلطنتی میبخشد. اسکندر کشف کرد که قدرت پادشاهی از سوی آسمان اعطا می‌شود نه نیروی سلاح نه خرد و نه هوش به او اجازه نمیداد سرزمین عجیبی را که در آن راه میپیمود فتح کند جایی که هیچ سلطنتی بجز سلطنت حق الهی وجود نداشت بنابراین فرمانده جوان جنگی باید اهمیت آرای مردم و اهمیت اعتمادی را که هموطنانش به او کرده بودند به دست فراموشی می سپرد و در جهان بینی خود بینشی جدید در باره وارد می‌کرد. خدایان یونانی تعدادشان زیادتر، گوناگونتر و مریتر از آن بودند که بتوانند چنین قدرتی به او ببخشند. وانگهی، آنها به هیچ وجه ادعای هدایت رفتار انسانها و الگو ساختن برای آنها را نداشتند. سقرات، افلاطون و حتی ارستو آموزگار اسکندر، همگی در جستجوی یافتن قواعد اساسی خرد خارج از هر گونه مکتب خداشناسی بودند. اگر اسکندر طبق سرمشق ملت خود یگانگی الهی را به روشنی درک نمی کرد، مفهوم یگانه نیز از جهان نداشت که البته نداشت و بنابراین کوشش او برای آشتی دادن دو سنت بزرگی که در هر قاره وجود داشت کامیاب بود، زیرا جهان به دو قسمت تقسیم شده بود. به هر حال وحدت سیاسی و فرهنگی مورد نظر فاتح نمی توانست تحقق یابد مگر آنکه غرب قرب به مفاهیم خداشناسانه شرق گردن می نهاد. پرستش اهورا مزدا تحت تأثیر فضاینده کیش زرتشت رفته رفته خدایان دیگر را از صحنه خارج می کرد یک پرستی تمام جانها را دربر می گرفت اسکندر به رغم آرزوی عمیق ایجاد وحدت سیاسی و به رغم پی بردن به ماهیت قدرت پادشاهی که به محض عبور از داردانل با آن آشنا شده بود نمی توانست مفاهیم و برداشت‌های دو تمدن را در مورد خداپرستی آشتی دهد و این منبع ابهام و اضطرابی شد که اسکندر را تا دم مرگ در بابل رها نکرد او در شهر برج بزرگ با بیماری تب درگذشت نه در میدان نبرد، و در قلب شرق جهان را ترک کرد، نه در وطن خود مقدونیه. بابل او را تسخیر کرده بود، نه از طریق قلب بر او، بلکه برای اینکه او را در شکوه اسرارآمیز خود بپوشاند و غرق کند، همانطور که کورش را مجذوب خود کرده بود. و گور اسکندر را خدایان بابل بستند که نسبت به خدایان یونانی کاملا بیگانه بودند. با این حال از نخستین حمله‌های ایرانیان بر قاره یونانیان فهمیده بودند خدایی که مهاجمان میپرستند برتر از خدایان محلی ایشان است. این خدایان هر یک وابسته به شهری روستایی، جنگلی، جاده‌ای، منبعی، رودخانه‌ای و شاخه‌ای از دریا بودند. اما خدای ایرانیان برعکس خدایی هم مادی و هم معنوی بر همه خدایان مسلط بود و پرستش آن کلید درک جهان محسوب میشد. بدین ترتیب، روحانیت آپولون همیشه از سپاهیان داریوش حمایت کرده و به کمکهای مادی و اخلاقی مذهب اعقاب کورش پرداخته بود و برای آن در یونان آرزوی پیروزی کرده بود. شاید آنها توجه شاه بزرگ به بندگان و خدمتگزاران آپولون را در قلب لیدی در ماگنزی به یاد می آوردند. اسکندر آیا با پیروزی عجیبی که او را به قلب آسیا کشانید، پیشرفت جهانبینی شاهان آنشان را در اروپا متوقف نکرده بود؟ همان جهانبینی که هخامنشیان را به آن سوی تنگه ها کشانیده بود؟ اسکندر نتوانست به آن یک پارچگی و وحدت خدا شناسانه که ایرانیان آن را ضروری می‌دانستند، تحقق بخشد. مقدونیان برای وحدت دو تمدن اولویت قائل بودند. در فقدان بینشی شرقی نسبت به خدایان سازمان سیاسی، شجاعت نظامی، خلوص اخلاقی، اراده وحدت خواهی و خرد فلسفی که بخشی از طرح اسکندر بود، به تنهایی نمیتوانست به رؤیای او تحقق بخشد. اسکندر در یک شامگاه به دشت پاسارگاد اردوی پیشین پارسها ها رسید. در مقابل قبر كورش توقف کرد. قبر سنگی در یک مقبری کوچک و روی یک صفه طلایی در بالای یک پاسنگ ششپلهی قرار گرفته بود. بنا با که مقان مدتهای طولانی از آن محافظت کرده بودند حالتی نیمه ویران داشت مقدونی دستور داد در مقبره را با سنگ سنگینی فرو بندند آنگاه خود به همراه آریستوبول تاریخ نگار به درون مقبری رفت که بنیادگذار امپراتوری ایران در آن آرمیده بود کتیبه‌ای که دستی بینام قبر کنده بود گویی خطاب به مردی بود که روزگاری از دور دست ها می آمد و با کسی که در اینجا آرمیده بود، از نظر شایستگی هایش شباهت هایی داشت. کوروش با یادآوری کیستی پادشاهی خود و ارمغانی که به شکل یک امپراتوری به تنهایی برای ایرانیان فراهم کرده بود، گویی می خواست از فراسوی مرگ اعلام کند که هیچ کس پس از او نمی تواند. آنچه او انجام داده است، تجدید کند. آیا اسکندر آزین گل سرخی روی سنگ را که نشانه پرستش اهورا مزدا و نماد صدی بود که میان فاتح وجود داشت ملاحظه کرد؟ این آزین یاداوری می کرد که سردار مقدونی هرگز نمیتواند روح آسیایی را تسخیر کند. بدین سان، اسکندر به رغم خاست خود برای سرفرود آوردن در مقابل جهانبینی شرقی از یگان پیروزی که برای اهمیت داشت بی بهره ماند. کوروش راز پادشاهی را دریافته و معنویت شرقی را با تمام وجود خود لمس کرده بود. با وجود این مرگ با همه بیکرانگی خود در آنجا حاضر بود. شاه بزرگ از درون خاکی که در آن مدفون بود درخواست می‌کرد که هیچ کس خود را با او برابر نپندارد و او را از آنچه برای همیشه به او تعلق داشت یعنی سرزمین ایران محروم نکند من کوروش هستم شاه هخامنشی ای مردی که هر که هستی و از هر کجا می آیی زیرا میدانم که خواهی آمد من کوروش هستم که به ایرانیان شاهنشاهی بخشید با من مشاجره مکن یگانه چیزی که هنوز برای من باقی مانده است یک مشت خاک است که پیکر مرا پوشانده است